سوره سبا هم از سوره های مکی هست چون در این سوره داستان قوم سبا بیان شده ملک سبا در میمن هست شما داستان یکی از ملکه های سبا را در داستان سلیمان خان دید ملکه سبا بلقیس بود که حضرت سلیمان او را دعوت داد به اسلام و به ایمان او ایمان آورد اما این در زمانی دیگه هست در ابتدای ابتدا پادشاهی بود به نام سبا اسم خود پادشاه سبا بود ده تا فرزند داشت بعدن همون ملک را اسمش را سبا گذاشتند اینا را خدا خیلی نعمت داده بود خلاصه داستان را بگم بعدن به تفصیلش خیلی خدا نعمت داده بود اما اینها ناشاکر نعمت های خدا شدند سپاسگزاری نکردند خدا تعالی نعمت ها را از اینها گرفت لذا الله تعالی هم در رابطه با داستان اینها و هم قبل از اینها داستان داوود و سلیمان هست خدا می فرماید من این نعمت ها را به شما میدم انتظار شکر دارم انتظار سپاسگزاری دارم شما بنده شاکر من باشید لذا الله تعالى آغاز می‌فرماید سوره را با توحید الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض تمام صفات الوهیت، صفات نافعیت، ضاریت، عالم الغیب مشکل گشاه جت روا این صفات اختصاص به الله اون اللهی که الی له ما فی السماوات و ما الارض. تمام تصرفات آسمانی و زمینی مال اوست در آسمان هرچی در زمین تصرف میکنه او میکنه هیچ کسی از اولیاء نمیتونه ملائکه انبیاء هیچ کسی اختیاری نداره و له الحمد فی در آخرت کلا حمد و تعریف برای اوست ببین در دنیا در کنار خدا دیگران هم تعریف میشن خدای عزواجل اینجا نعمت هایی که در دنیا به ما داده برای این نعمت ها واسطه هایی گذاشته اسبابی گذاشته بعضی وقتا ما به جای اینکه خدا را تعریف بکنیم همون واسطه ها را تعریف میکنیم این هم اشکالی ندارد بلاخره تعریف واسطه ها و تعریف اون اسباب بر به تعریف خدا مثلا انسان سبب وجودش چیه؟ والدین هستند بازی هاستن که والدین را احترام میکنند خب احترام والدین احترام خداست تعریف، چون خدا گفته احترامش داشته باش. تعریف والدین تعریف خداست اگر خدای تعالی به تو نعمت علم داده شما گاهی از استادت تعریف میکنی اگر الله تعالی به شما نعمت صحت و سلامتی بعد از مریضی داده میری دکترت را تعریف میکنی اگر خدای تعالی به شما باقی خوب داده زمین و آب را تعریف میکنی خلاصه هر چیزی که شما در دنیا تعریف میکنید گاهی این تعریف متوجه اون سبب میشه اون واسطه میشه اما در آخرت این اسباب و واسطه همه برداشت میشه ولَهُ الْحَمْدُ فِ الْآخِرَةُ اونجا دیگه نه هست که او را تعریف کنی نه فرماندهی هست نه مجاهیدی هست نه استاد و عالمی هست نه شخصیتی هست اونجا اول و آخر همه, همه انسان ها از انبیا گرفته تا غیر انبیا همه خدا را تعریف می کنند وله الحمد فی الاخره این معنیش هست که همون طوری که در دنیا او حمد بالی او هست در آخرت هم مال او است اما در آخرت اختصاص به او دارد در دنیا مشترکه مالکی یو مدينین در دنیا اون پادشاه است. اما اینجا پادشاه زیادی هستن که بیا میکنن این سرزمین مععلم است اینجا مععلم است این ملک مععلم است این مرزها مععلمن. اونجا نه اونجا مالکی یو مین مطلق پادشاه او هست. کسی دیگه اونجا وجود نداره نه ترامپی هست نبوشی هست ن بلری هست نه کسی دیگه که بگ ما هم اینجا کاری ای هستیم. تو دنیا خیلی از این تسمار خانها هستند. ولی اونجا خبری از این ادعاها نیست الله می فرماید که وله الحمد فی الاخره فقط و فقط برای او حس در آخرت یعنی و هو المالک للاخره و هو الحکیم الخبیر اون ذات ذاتی هست که با حکمت است هر چیزی را که انجام میده از حکمت انجام میده الخبیر اون با خبر است یعنی بر اساس اطلاع و علم کامل انجام میده و الله عز و هم تصرفش کامل هم علمش حال در بار علمش می خانیم یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرجو منها الله میدانت آنچه که در زمین داخل می و آنچه که از زمین خارج می در زمین چی داخل می شے قطرات آب که از آسمانیت تو زمین میره دانه و بیزر تو زمین میره تو زمین دیگه کرم ها هست حشرات هست در زمین معادن هست فلزات هست طلا هست در زمین نفت هست گاز هست امروز هر چی که مردم از زمین اکتشاف و استخراج میکنه هر چی تو زمین هست خدا میداند یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرج منها هر چی از زمین خارج میشه نباتات هست گیاهان هست علف ها هست سبزیجات هست درختها اس انواع میوها انواع حبوبات همه را الله تعالی میداند چه از زمین خارج میشه و چه در زمین میره رہے حتی دفینهای شما مردهایی که دفن میکنه همه را الله میداند و ما من السماء و ما يعرج فيها آنچه که از آسمان نزول می کند را الله میداند و آنچه که به سوی آسمان عروج می کند الله میداند از آسمان چی نزول میکنه یا باران نزول میکند یا فرشتها میان پایین یا خداوندی از زوال برای بندگانش فیصله خیر و رحمت میکند رحمت میاد برکات میاد یا خدای ناکرده عذاب میاد بدبختی میاد مریضی میاد کرونا میاد همه از آسمان فیصله میشه میاند همه را خدا میداند و اون چی که توی آسمان میره بالا هر روز فرشتحاب از زمین به آسمان میره هر روز ارواح انسان ها می میره به طرف بی بالا هر روز اعمالی که شما انجام می میره بالا دعایی که شما انجام می این دعا میره به بالا هر چی که به بالا میره الله تعالی از همه خبر دارد یعنی ذره در, آس در آلم نیست نه در آسمان، نه در زمین، نه در ما بین اینا خدا بی خبر باشد و هو الرحیم الغفور، اون ذات، ذات مهربان هست و با، ذات بخشاینده هست حال، الله تعالی بعد از این که بیان فرمود، هم علمش را، هم قدرتش را گلایه می کند، شکوه می کند از مشرکین، از کفار چون خدا می من بر اساس علم و قدرتم قیامت را هم میارم اونا قیامت را قبول نداشتن ببینی خدا تعالی برای اینکه بندگانش باور بکنه چقدر سوگند یاد میکنه الله می فرماید وقال الذین کفرون گفتن کسانی که کف کردند لا تأتین الساعة قیامت برای ما انا میاید خیلی از جوانهای سبک ما امروز همین میگند بازی پدرها و مادرها گلایه می کنند که جوانها قیامت را قبول ندارند وقتی بهشون گفتی میشه قبری هست عذابی هست میگه این حرف قدیمی شما چرا این رو باور میکنید العیاذ بالله ارتداد انکار قیامت داره زیاد میشه اما خداوند ببین چه جواب میده وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه گفتن کسانی که کفر کردن قیامت پیش ما نمی آید الله جواب میده قل بالا بگو bale چرا آید و ربی سوگند به من قسم به من لتاتیانکم حتما حتما پیش شما قیامت می آید حتما حتما قیامت برپا میشه عالم الغیب قسم به اون ربی که عالم الغیب هست دانان دانان دی غیب هست هر که مخفیات هر که پنهان کاری های شماست همه را میدانات هر که مخفی کردی کسی را کشتی مخفی کردی هیچ خبر ندرو میدونه چشمت خیانت کرده کسی نمیدونه او میدانه اگر در مسائل مالی خیانت کردی کسی نمیدونه نمی او میدونه لا یعزب عنهم اقال ذره في السماوات والارض غائب نمیشه از اون مخفی نمیشه از پروردگار به اندازه یک زر در آسمان ها و نه در زمین ولا اصغر من ذالک و نه کم تر زر ولا اکبر و نه بیشتر از آن الا فی کتاب مبین مگر در لوح محفوظ همه و همه نوشته هرچی هست سبته لذا الله سوگند میخوره که قیامت میاد کنے کہ ہر و سوگند یاد میکنه که هر ریز درشت را خدای عزوجل ظاهر میکنه لذا قبل لزنگ کے ان از کے اون مخفیات ما را و پنهان کاری های ما را خدای عزوجل ظاهر بکنه همین توبه کنیم گریه کنیم پاکشون کنیم که اونجا بدنامی نیاد هدف پروردگار همین است که هر کسی کار مخفی انجام داده به صورت مخفیانه انجام داده اونجا ظاهرش میکنه لیجزی الذین قیامت را خدا میاره برای چی میاره این لام باز هم نتیجه هست عاقبت و نتیجه این میشه که لیجزی الذین جزای نیک میده اولاً به کسانی که امنوا و عامل الصالحات و قیامت آمدن قیامت قبلا بنده در پرتو آیات گفتم یکی از دلایل عدالت پروردگار است یکی از ازدللایل عدالت پروردگار است چرا؟ که شما فرض کنید شما هستید با هفتاد سال سابقه در زمین یک همسایه ای دارید اونم هفتاد سالشه؟ شما در ظرف این هفتاد سال کاملا پایبند بودی؟ دست از پا خلاف نکردی اخلاقت خوب بوده رفتارت خوب بوده مال کسی را نخوردی نسبت به مردم خوش رفتار بودی حق خدا را ادا کردی حق بندگان را ادا کردی مال داشته به بی نوایان رسیدی به یتیم ها رسیدگی کردی هر چی که وظیفت بود یک روزی هم اشتباه نکردی اما اون همسایه شما فرض میکنیم اون برعکس شما ضد شما اون غیر از آدم آزاری کاری نداشته غیر از کشتن انسانها کاری نداشته، غیر از بالا کشیدن مالی یتیم کاری نداشته غیر از عذیت و آزار غیر از خیانات غیر از فساد غیر از زنا و فحشا غیر از مشروب غیر از بیبندواری کاری نداشته الان هر دو تایتون می میرید ہیچ چی نباشه واقعاً بیعدالتی ہے که هر دو یکی با پاکی زندگی کرد یکی با ناپاکی یکی با عدالت یکی با فساد و ظلم مردند هر دو تا تمام شد دیگه. زندگی تمام شد هیچ یکی نتیجه نگرفت نه باید یه سالو نی باشد یه میدانی باشد یه جایی باشد که مشخص بشه شما خوب بودید نتیجه شما چیه اون که بد بود نتیجه اون چیه عدالت خدا همین تغذامی کنه به همین خو... خاطر خدا می‌فرماد. و ما یستوی آمّا و الباسیر نابینا و بینا برابر نیست. یعنی کافر و مسلمان برابر نیست. مسلمان اطاعت کرده، کافر پشت داده. باید اینها یه جایی باشه که مشخص بشه اینا نابرابرند اون چیه اون میدان محشره. لذا اللہ می می‌فرماد. لی ازیال الذين آمنوا و عملوا ساله حت نیک بده آنها را که ایمان آوردند و عمل ساله انجام دادند اولایک لهم مغفرت و رزق کریم این افراد برایشون هم بخشش است هم رزق معزز از جانب پروردگار هست اما والذین سعو في آياتنا معاجزين کسانی که تلاش میکنن در آیات ما که معاجزين یعنی في ابطال آیات ما سایمی که آیات ما را بی اثر بکنند آیات ما را بی تاثیر بکنند معاجزین یعنی کننده پیغمبر و مؤمنین باشند یعنی کسانی مثل ابو جهل ابو لهاب عتب اشیبه همش با دین مبارزه میکنه مثل عبد الله ابن ابی مثل فرعون مثل حامان با حق و مسیر حق مثل پادشاهان غیر مسلمان امروز که همیش بر علیه قرآن بر علیه جهاد بر علیه حجاب بر علیه نماز بر علیه مسجد و نماز خانه فعالیتی که جلو اینها رو بگیرند این که ساو فی آیاتنا لذت فقط فران نیس فران امروز ما هست کسانی که سعی میکنن در آیات ما که معاجزین که عاجز کنان مومنین را انبیاء را اولئک لهم عذاب من رجزن الیم برای اینها عذابی است من رجزن الیم یعنی از نوع سختش رجز سخت دردناک و یرا اوت العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق الله تعالی می فرماید که و یرا میدان کسانی که کتاب داده شدن علم داده شدن کسانی اون اهل علمی که اونزل ایلی که من ربکا اونی که نازل شد تو از جانب ربت میدوند که این کتاب که تو نازل شده هو الحق ان حق است. یعنی اهل علم هم گواه هستن اهل کتاب هم گواه هستن و یهدی الی سراط العزیز الحمید و راهنمایی نمائی می کند این قرآن به سرات ذاتی که هم غالب است و هم ستود شده است پس ببینید قیامت را خداوند به این خاطر برپا می کند اما اینجا خداوند در ادامه سرزنش می کند کفار را. کفار چقدر رسول الله را مسخره می کردم. به هم دیگه میگفتند بیایید بیاید امروز به شما نشون بدم اون شخصیتی را که اون شخصیت میگه هر وقتی که انسان بمیره تک تک بشه از بین بیر دوباره انسان سالم میشه و درست میشه مسخره می کردن وقال الذين كفروا گفتند کسانی که کفت کردن به هم دیگه گفتن هل ندلکم آیا شما را دلالت کنم شما را راه کنم علا رجل بر مردی که یو نبعو کم اون مرد به شما خبر میده اذا مزیقتم کل ممزق هرگاه شما ریزه ریزه شدید کل ممزق یعنی به صورت کامل ریزه ریزه شدن زمانی که شما خاک و خاکستر شدید این مرد میگه اینکم لفیت فی خلق جدید شما در پیدایش جدیدی خواهید بود دوباره زنده می شد افترا علی الله کذبا آیا افترا می گویید بر خدا دروغ را ام به جننه یعنی جنون دار دیوانه از علی از بالله به رسول الله می گفتند الله تعالی می فرماید نا افترا هست نا جنون واقعیت اینه بل للذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال الضلال البعید الله می فرماید بلکه کسانی که ایمان ندارند به آخرت آنها در عذاب انکار و در آفت هستند در آینده در عذاب گرفتار می و در گمراهی بدور از حق هستند و الضلال البعید به گمراهی دور از حق و خداوند عزوجل برای این منکرین قیامت انهار تهدید میکنه میگه اقوام گذشته را می ببینید مثل شما انکار کردند چه حال زاری دارند به چه گرفتاری مبتلا شدند؟ افلم یارو، الى ما بین ایدیهم و ما خلفهم آیا نمی بینند ما بین ایدیهم جلوی خودشان را و پشت سر خودشان را من السماء والارد از آسمان و زمین این در رابطه با خلاق آسمان جلویت ترا نگاه کن آسمان را می بینی پشت سرم آسمان زمین هر طرف این زمین و آسمان را خدا میتونه سبب عذابت بگردانه چطور؟ نخصف بهیم الارض اگر ما بخواهیم خسف میکنیم اونها را فرو میبریم به وسیله رانش زمین اونها را در زمین میبریم او نسقط عليهم هم من السماء یا میاندازیم بر اونها تکی از آسمان تکی از آسمان بیفته زمین نابود میشه ویران میشه گاگای خدا تهدیدمون هم میکنه یکی دو سال شاید یادیتون هست که دانشمندان فضایی گفتند یک شهاب سنگی با قطر 4 کیلومتر داره به طرف زمین میاد و با یک سرعت زیادی میاد و اگر این با زمین برخورد بکنه شاید نصفی شاید یک سوم زمین ویران بشه خراب بشه شاید میلیاردها انسان تلف بشه اینا همیشه در واقع تلنگورهایی هست که خدا داره میده و اینا جدی جدی بودند اما بعضیشون گفت نه تجربه گذشته نشان داده اینا هرچی یعنی که به زمین نزدیکتر بشن اینها ضوب میشن، اینها متلاشی میشن یا اینکه با یک فاصله بسیار دوری از کنار زمین رد میشه اما این یکی خیلی دی زمین را هدف قرار داده و داره به نزد زمین نزدیک میشه خیلی از ما که بالاخره به ظاهر این اخبار متاثر بودیم میترسیدیم چی میشه عاقبت اهل زمین چی میشه اما بعدا وقتی که خطر گذشت گفته این شهاب سنگ از فاصله چهار چهار کیلومتری یا چهل کیلومتری آدم نیست از کنار زمین رد شد و رفت لذا گاهی الله تعالی اینو آیات را و اینو نشانات را نشون میده که انسان ها بگه اگر خدا بیاد ما را ویران بکنه هلاک بکنه چی میشه آخر قیامت با یکی از این اتفاقات میشه همه این ستاره و سیارات و ماه و خورشید و زمین به هم دیگه برخورد میکنند همه متلاشی میشن انفجاراتی رخ میده اون وقت الله بهتر میدونه چی میشه لذا الله میفرماید منافق نمیگن نمی ترسند اگر ما بخوایم در همین زمین فرو می بریم او نسقت علیهم کسفا من السما یا تکیز از آسمان بی اندازی میتونیم ان فی ذلک لایه لكل عبد منیب همان در این آیات نشانی هست در این تهدید خدا نشانی هست برای هر اون بنده ای که در وجود او انابت باشه طلب حق باشه جستجوی حق باشه لذا همیشه بنده منیب باشیم و حرف خدا را قبول کنیم باور کنیم و لقد اعتینا داوودا من فضلا الله تعالی اینجا ذکر داوود و سلیمان را میکنه ببینید داوود و سلیمان هم دو تا پیغمبر بودند هم دو تا پادشاه بودند هم اینا تو پیغمبریشون ویژه بودند تو پادشاهی هم ویژه بودند پادشایی که خدا به انها داده بود امکاناتی که خدا به انها داده بود تا به امروز به کسی نہ داده کدوم پادشاہ است که بعد با او همه هنگ باشه طوفان و وسیلش همینطور که هواپیما پیما پادشاہان را ہر جا هر ام جا می بره اون بعد اونا را به هر ببره تختش را بلند کنه ببره یا کدوم پادشاه است که جنات کاملا برای او کار بکنند تمام پرسنل جنات در اختیارش باشند یا کدوم پادشاه است مثل داوود علیه و السلام که علنا له الحديد خدا میفرماید که این آهن را در دستش نرم قرار داده بودیم آهن در دستش موم شد مثل موم بود هر طور می خواست به همون سور لباس زریحی درست می کرد ازش لباس جنگی درست می کرد کدوم است که کوه باو همه هنگه پرنده باو همه هنگه وقتی که حضرت داود می‌رفت، زبور را با یک نغمه و ترانه خاص می قبلا خدمت شما عرض کردم در زبور همیش مناجات و اوصاف و تعریفات خدا عظمت خدا خودم پادشاهی که این خصوصیت را داره لذا الله تعالی به اینها نعمت های خاصی داده بود الله می فرماید ولقد آتینا داوودا من همانا ما دادیم به داوود از جانب خودمون فضل دادیم و وبکوها گفتیم یا جبال اوبی و والطير ای کوها هم صدا بشید با داوود و ای پرندگان شما هم هم صدا بشید هم صدا شدن به چه معنا بعضی ها که زیاد درباره معجزات و خارق چیزی نمیفهمند سعی میکنه این آیات معجزه را توجیه بکنن. بعضی میگن مثل اینه که داوود میرفت الله میگفت ذکر میکرد صداش تو کوه میپیچید دوباره صدا پیشبر میگرد. این را من و تو هم میتونیم بکنیم شما برو تو کوه بگو الله کوه میگه الله صدا بر میگرده یا نمیگرده بر میگرده پس این چه موجزه بعضی میگن کوها به زبان حال تسبیح میکردن نه به زبان حال هم نبود به زبان حال الان همه های اطراف زایدان تسبیح و تعریف خدا را بیان میکنن منظور از این معجزه داود از به زبان قال بود یعنی داوود صداشون را میشنید به زبان حال نبود به زبان قال بود این معجزات را کسی باور میکنه که ایمان قوی داشته باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من قبل از نبوت قبل از نبوت همیشه وقتی می رفتم کو یک سنگ همیشه به من سلام می گفت مثلا اون سنگ رو میشناستم کدومه الان کسی باور نمیکنه اینا معجزه هستند لذا داوود علیه الصلا و السلام وقتی که می رفت خدا دستور داده بود وقتی که داود با اون صدای خوش داود علیہ السلام صدایش بسیار زیبا بود وقتی که داود با اون صدای زیباش ترانه ما را میخانه نغمه ما را و از ما تعریف میکنه ای کو تو هم باش هماهنگ باش سرود دست جمعی بخونید منش این میشه ای پرنده تو هم بخان الله بهتر میدوند چه فضایی ایجاد شده؟ چه وضعیتی داود می خانند کو هم می خاند، پرندگان همه هم صدا دارند الله را تعریف می کند؟ انسان ت نکنه اون حالت را و اون وضعیت را میدید؟ مداود وقتی میخوااند چناان زیبا میخواند که کوه و پرنده وجد در میآدند؟ وہ باش ہم صدا میشدن لذا اللہ می فرماید یا جبال ایکوها او بی معه ہم صدا شوید با او و طیر و ایک پرنده این یکی از نعمت های خدا که به داؤد داده بود و عللنا له الحديد ما آهن را برای او نرم کردیم خدا چنان داستان معجزه آوری بی شادادی بود که آهن نرم بود همین طور که شما یک موم را بچه های ما با یک موم گاهی میگینن کی درست میکنن گاهی اتاقه کی درستش میکنن گاهی میگیرن ماشینی ازش درست میکنن گاهی شطوری درستش میکنن همچنین داود آهن را هرچی که دلش میخواست درست میکرد و خدای عزواجل این ماجزه را به داود داده بود که لباس جنگی درست کنه داود علیه سالات لباس جنگی و زره درست میکرد لباس زره درست میکرد و این لباسها را از این طریق امرار معاش میکرد میفروخت کار کردن برای انبیاء عیب نیست سنعت عیب نیست قبلن این بحث را کردم اهل علم هم ولو اینکه عالم هستند حرفی یاد باشند باشن خوبه کار برشون عیب ولی متاسفانه در جامعه ما مردم به دید دیگه نگاه میکنه عالمی که کار میکنه البته عالمی که کار میکنه کار دنیا میکنه و دیگه هیچ کار دین نمی اون عالم قابل ملامته اما اونی که کار دنیا میکنه و کار دینش را میکنه از راه دین نمیخاد درآمد داشته باشه میخاد که گچکار بشه بره برای مردم گچکاری بکنه اما در ساعت درس تو مسجد درس بده مردم را ارشاد و راه نمائی بکنن بیترین کار است حضرت مولانا ابراهیم دامنی رحمت الله علیه خیلی خدمت کرد و از دین خدا هم خوب دفاع کرد از صحابه خوب دفاع کرد اما امرار معاش مولانا دامنی اگر شما خبر ندارید بدونید یک پیکانوانت بود با او تو ایران شرک کشی می کرد از این طریق در می آورد ولی کار دین را هم از دین خدا خوب دفاع هم کرد لذا اشکال نداره که کسی هم کار بکنه پیغمبران کار میکردند، هم کار میکردند، بعضی از تجارت میکردند، بعضیها های دیگه داشتند، هر های دیگه داشتند و از این طریق درامت لذا آنی عمل سابقات ای داوود درست کن سابقات سابق یعنی ذراهای فراخ بساز کشاده درست کن این ذرا خوب کشاد بشه تا کسی بتونه تنش بکنه و قدر في سرد و حلقه های او را و متناسب اندازگیری کن سرد بمعنی بافت بافت از کنم که حلقه های ذرا و عمل صالحا و دیگه عمل صالح کنید تنها کار نکنید در کنار کار عبادت هم بکنید و عمل صالحا به بما تعملون بصیر من به اون چی که شما عمل می کنید هستم ببین داود علیه سلام این صورت کار می کرد و سلیمان الله می فرمد و لسلیمان برای سلیمان ما مسخر کرده بودیم باد را غدوفوها شهرون و رواهوها شهرون یعنی یک ماهش در یک بعد ظهر انجام می و یک ماهش در یک صبح انجام می گرفت یعنی چه یعنی مسیری که باید در ظرف یک ماه می رفتی با پای پیاده و پا پای شطور به وسیله بعد با یک سرعت 100 کیلومتر کو او را برد یک بعد زور اون مسیر تیمی شد اگر با پای پیاده می رفت با شطور می رفت یک ماه راه می رفت اما با بعد خدای از و چقدر دوره؟ یک بعد زور یا یک صبح یعنی نیم روز رضا الله می فرمایی قدوب شهرون بعد او صبح اون یک ماه بود و رواه و شهرون بعد زور اون من هم یک ماه بود و اصلنا له عین القطر ما جاری کردیم برای او چشمه مثل مزابرا. قطر می گویند مثل گداخت شده مضاب زوب شده یعنی خدای تعالی به داود اون سنت را داده بود که داود آهن را مومی کرد برای سلیمان الله تعالی فلز را فلز مذاب را در اختیار چشمهی در اختیارش گذاشته بود که از اونجا فلز مضاب زوب شده به دست می آمد ار چی دلش می درست می کرد. و من الجن و همچین از جنات جنات را مسخر کرده بودیم برای سلیمان من یعملو بین یده بی اذن ربه کسانی که کار می کردن برای اود به اذن پروردگار ببین جنات را خدا تعالی مسخر کرده بود برای سلیمان علیہ السلام که کار بکنند اس سوالی گاهی پرسند بعضی چون امروزه بعضی از علما هستند میرند دنبال همین جنات میرند یک هنری هست البته این بگیم که حتما کسی که دیندار باشه نه بعضی از مردم عموم مردم هستند بعضی جوان هستند اینا میرند دنبال همون فنش میرند بعضی میگن یک چله لازم است یک چله کشی میکنند یک سری معمولاتی میخوانند جنات را مسخر میکنند دو تا جن تا جن را گیر میارن این جنات برای کار میکنند امروز البته اکثرا منبع درآمد قرار دادن از این طریق جنات را مسخر کرده مردم وقتی که مشکلی دارم میرن به اونها پول هنگفتی میدن اونها همه ای یک چیزی از قول جن میگه یا درست میگه یا نادرست میگه چون در حدیث آمده درست این عالم شاید عالم خوبی باشه صالحی باشه شما می شناسید بهش اعتماد هم دارید ولی اگر حرفش دروغ باشه چون اون جن بهش دروغ میگه. طور اینطور میشه. حالا بحث اینه که این عامل بودن درسته یا نه؟ چون این این کار را میگه عامل، این فرد را میگه عمل، میره کارهای انجام میده آخر جنات تابعع خودش میکنه. آیا تابع کردن جنات تسخیر جنات مسخر کردن جنات صحیح هست درست است یا نیست الان با توجه به اینکه خداوند می ما برای سلیمان مسخر کرده بودیم کسی اگر بره این فن را یاد بگیرد این فن اشکالی ندارد اما ضرر زیاد داره برایش هم ضرر دینی داره هم ضرر دنیاوی داره ضرر دینیش اینه که بلاخره دروغی خواسته یا نخواسته همیشه به زبانش هست ادعاهایی که بعضی از این ادعاها ادعاها بوی غیب میاد چون اون داره در ادعا میکنه این ادعاها هم بر زبان این آغا هست دیگه اشکالش اینه که درامتش از این طریق خدا می دونه که پول این فقیر را به حق می گیره یا نه می میگیره برایش کاری می کنه یا کاری نمی کنه اون مفت اکمیلین تومنش را نمیده. اون فکر می کنه که این دیگه بچه گم شده من را داره پیدا می کنه این داره مریض من را به وسیله جنش اون با جادوها را داره باطل می کنه در حالی که ایچی از لستش هم نمی شه بعضی انجام اوقات این طوره بنابراین اگر درست و جائز باشه مصلحت نیست اساتید و مشایخ ما میگفتند دنبال اینها نروید که اولا این ضررش است دوم این جنات قومی هستند که اونقدر به ما منافع نمی رسانند که ضرر می رسانند خیلی از همین نوع افراد ما می شناسیم شما هم می شناسید کسانی که در منطقه بودن از قدیم با جنات سروکار داشتند بعد از این که اونا مجبور شدن جنات را زندان کردند تابه خود قرار دادند همین که اونا از این دنیا رفتن یا در همین زندگی خودشون این جنات مسلس شدن بر خانواده فرزندانشون فرزندانشون میبینی یکی عصبیه یکی دیوانه یکی فلانه و گاهی بعضی از زمین افراد میشن آسم که در یک شب در یک شب جنات به تمام اعضای خانواده دور و نزدیکشون حمله کرده، همه را اذیت کردند همه دیوانه شدند لذا اینها ضربه خودشون را میزنند و سلیمان علیه و السلام که پیغمبر خداست اونا به سلیمان ضربه زدند به من و تو سلیمان تاب امروز بنی اسرائیل یهودی درباره دربارے پیغ... سلیمان کی ایک از پیغمبران بسیار بزرگ خداوند هست بسلیمان نظر خوبی ندر معتقدن سلیمان پادشاہی بوده و از طریق جادو و تلسم پادشاہی بھی کردے چرا چون جنات رب سليمان در اختیار خودش گذاشته بود همین که قران میگه این کارها را از اونها میگرفت بعد از اینکه سلیمان عليه السلام وفات کرد ما ان شاء الله می خانم عایش جلوتر سليمان عليه السلام وقتی که وفات کرد جنات دوباره سحر را، جادو را شرک را میخواستن ترویج بدن قبلا از سلیمان میترسیدن میگفت گفتم مردم سلیمان تابحال هر چی که هر کاری کرده با جادو تلسم کرده چون سلیمان در زمان سلیمان جنات کار جادو میکردن سلیمان را خدا وقتی تسلط داد همه جنات را دستگیر کرد اونایی که رام شدن اونا را آزاد کرد اونایی که نشدن به زنجیر بست تمام جادوها را جمع کرد در یک صندوقچه زیر تخت خودش دفن کرد در همون اتاق خودش جنات خبر داشتن کجا هست؟ به مردم گفته اینجا, اینجا دفنه اون چیزی که سلیمان جادو کرده همون جادوهای خودشون را به عنوان سلیمان به مردم نشان دادن مردم در آوردن همه از سلیمان بدبین شدند حتی یهود معتقد بود که سلیمان جادوگر از قرآن میگه وما کفر سلیمان ولیکن نشیاطین کفرو در سور بغر خاندیم سلیمان کفر نکرد شیاطین کفر کردند، جنات کفر کردند. بس ببینید داره قرآن از سلیمان دفاع میکنه در مقابل یهود در حالی که سلیمان از زمین بنی اسرائیل بود چنان به سلیمان بعد از وفات سلیمان ضربه زدند. لذا وقتی برای سلیمان رحم نکردن برای ما اینا چه رحمی میکنن بهترین راه مبارزه با اینها نه اینکه ما دنبال جن بریم دنبال تلس بریم دنبال فلام بریم ما همیشه خودمون رب به خدا ببندیم آیات الهی را بخانیم اوراد را بخانیم اذکار را بخانیم هر روز خودمون را دم بکنیم خودمون دعا بخونیم الله ما حفاظت میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم با اون جائگاه که بلند دیداشت هیچ شبی نبود که قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سبار نخانند و تمام بدن خودش را دفن دم نکوند. هیچ شبی نبود از شر همین شیاطین و جنات و سحر و جادو حتی زمانی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم مریض بود و توانایی نداشت اون زمان ام المومنین عایشه برای رسول الله می خانت. دم میکرد به دستان رسول اللہ، دستان رسول به بدن خودش مالش میداد. لذا، بخونیم آیات الهی را همیشه بخونیم، الله حفاظت میکنه. دنبال این چیزها کسی نره بہتره، سالمتره، لذا الله میفرماید که سلیمان و من الجن من یعمل بین یده به بی اذن رب، به اذن رب برای سلیمان کار میکردن، و من یزیغ منهم عن امرنا، هر کسی که کج می شد از امر ما یعنی سرپیچی پیچی می کرد من عذاب السعیر می چشانی اون را عذاب جهنم عذاب ور یعنی اون را می عذابش می دادیم خب جنات چه کارهایی برای سلیمان می کارهای جنات یعملون له ما یشاؤ من محاریب برای سلیمان درست می هر چی که سلیمان مخاص محاریب محاریب جمع محراب است محراب بعضی گفتن عبادت خانه یعنی اتاق, اتاق برای عبادت بعضی می نه محاریب, محاریب اشارتن الى الابنیت الرفیع ها و بناهای بلند ساختمان برج ساخت و ساز را جنات بھی یه چیزی که برداشت ما هست چون جن ارز کنم که زیاد مورد اطمینان نیست سلیمان کار دینی از اینها نمی گرفت کار ارز کنم که دنیاوی از اشون می گرفت شما دقت بکنید چه کار رای حتی مسجد الاقصا ساخت و سازش را کردند پس یعملون لہو ما یشاؤ من محاریب برای سلیمان هرچی چی خواست ساختمان میساختند ساختند محاریب یعنی چه؟ ساختمان و تماسیل و برای سلیمان تماثیل تماثیل جمع تمثال است تمثال از نظر لغت عربی به مجسمه میگویند ولی اینجا مراد مجسمه نیست مجسمه همیشه ممنوع بوده مراد بعضی میگن که تابلوها هستند تابلوهای ارزشمند نقاشی که اونها را برای زیبایی بودند برای دکور ساختمان ها بودن یا برای فروش بودن بعضی میگن که تماسیل جمع تمثال تمثال به معنی تخت تخت های درست می کردن و جفانین کل جواب جفان جفن جمع جفنه هست جفنه کاسه بزرگ را میگن چنان کاسه های بزرگ و ظرف های بزرگی برای سلیمان درست می کردن کل جواب مثل حوز این کاسا مثل چی بود؟ مثل حوز بود و قدور راسیات و همچنین دیگهای پابرجا ثابت راسیات یعنی ثابت دیگ بوده. اینقدر دیگای بزرگ که دیگه منتقل نمی شدن کسی بر این دیگ می خواست چیزی درست بکنه باید با نردوان می دیگ می رفت خیلی بزرگ ثابت لذا خدای تعالی می فرماید این همه کارها را برای سلیمان و برای داود برای آل داود انجام می دادن خداوند به داود چی گفت اعملو آل داود و شکرا ای آل داود سلیمان آل داوود است بقیه فرزندان داود ای آل داود به شکرانه این نعمت های مادی و معنوی که من به شما دادم شما عمل کنید معلوم میشه فقط شکر زبانی کافی نیست فقط شکر زبانی کافی نیست شکر عملی هم لازم هست خداوند دو نعمت به آل داود داده بود هم نعمت دینی نبوت دین توحید و هم نعمت مادی همون دو نعمتی که امروز به من و شما داده من و شما هم دین داریم الحمدلله. توحید داریم خدا را به یگانگی قبول داریم راه نجات همینی که خدا به من و شما داده و هم من و شما نعمت مادی داریم خداوند این به من و شما امکانات داده که در گذشته مردم اصلا نداشتند لذا این خطاب متوجه ما هم هست که شما عمل کنید در مقابل این نعمت ها به شکران شکران یعنی شکر کنید و عمل کنید شکر بر شنو هست عزیزان این هر سنو شکر را داشته باشید یک شکر قلبی قبل از همه قلبا شما شاکر باشید یعنی تو قلبتون فکر کنی تصور بکنی خدا یا من کی بودم چی بودم چی داشتم هیچ الان این به این جایگاه تو مرا رساندی اینقدر مال دارم اینقدر عزت دارم فرزند دارم اولاد دارم ماشین دارم منزل و ساختمان دارم چه بروبیایی دارم چه جایگایی دارم تو قلبت بگو که من ارزش این را نداشتم خدا به من این عزت را داد این میشه شکر قلبی وقتی انسان تصور بکند و وقتی که شکر قلبی میکنید شکر زبانی هم بگو الحمدلله فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم که هر کسی الحمدلله گفت اون حق شکر را ادا کرد بالاترین حق شکر چیه الحمدلله ما میگیم خدایا شکرت هم خوبه ولی از این بهتر الحمدلله یا الحمدلله دیگری که آمده در قرآن در حدیث الحمدلله علی نعمت الاسلام مثلا شکر اسلام میکنی الحمدلله على نعمه الايمان الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ان الحمدلله يسك اهل بهشت در بهشت میکنند الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات بالاخره در الحمدلله هر نعمتی را که ذکر کنی ذکر کن الحمدلله على نعمه الاولاد الحمدلله علی نعمت المال الحمدلله علی نعمت الامن نعمت امنیت خدا بما داده هر چیزی که شکر کنی این شکر دوم دو هست زبانی سوم سو شکر عملی اینجا هم کافی نیست شکر عملی یعنی خدا را اطاعت کردن خدا را عبادت کردن و خدا را نافرمانی نکردن شکر عملی دوه دو تاس یکی از گناهان و از مااسی دوری کن خلاف نکن خدا را نارنجان خدا به این غد نعمت داده خدا را ناراز نکن و دوم دو خدا را بندگی کن همیشه نماز بخوان در شریعت ما نماز شکرم هست دورکت نماز به نیت شکر بخوان و خداي الزواجال فرموده در قرآن که لئن شکرتم توم لئ شما اگر شکر بکنید من بیشتر میدم اما اگر ناسپاسی بکنید مثل بعضی مردم میگه من بدبختم من چی دارم بعضی میگه خداوند علیہ عزو الله هیچ وقت کار ما درست نمی و کلمات دیگری که تکرار نمی کنن کفریه هستند این, این ناسپاسی را خدا دوست نداره لذا انسان وقتی که شکرگزار باشه خدا بیشتر میده من این مطلب را قبلا گفتم بعضم میگم دوست دارم همیشه عزیزان ما شکرگزار باشند شکر هر نعمتی بکنی خدا اون همون نعمت را اضافه میکنه شما مثلا شکر میکنی بر نعمت ایمان هر شب دو نماز شکر بخوان. روز بر روز ایمان تقویت میشه شنان ایمان قوی بشه که اون ایمان نمیگذاره هیچ گناهی بکنی اون ایمان نمیگذاره دست از پا خلاف بکنی اون ایمان تو را مستقیم به بهشت میبره اون ایمان مستقیم رضایت پروردگار را جلب بکنی هر انداز بر هر نعمتی شکر بکنی اگر خدا بهت علم داده نماز شکر بر علم بخانی خدا علم ترا اضافه میکن خدا بهت اگر مال داده نمازش شکر میخوانی … خدا مال اضافه میکنه خدا بهت اولاد خوب داده شما شکر میکنی خدا اولاد خوبت رو بیشتر میکنه صالح بودن رو بیشتر میکنه خدای عزوجل زن فرمانبردار داده انسان شکر میکنه اون فرمانبرداریش بیشتر میشه اطاعتیش بیشتر میشه هر نعمتی که داری سلامتی هر شب درکن نماز الحمد الله من سالم نه غندارم من قلب دارم نه فشار دارم نه فلان دارم خدا این سلامتی را بیشتر می‌کنه لا ان شکرتم لا ازیدن نکن لذا سعی کنید برای همه های، هم دینی هم دنیوی شاکر باشی، الله تعالی می فرماید اعملوا آل داوود شکر ا ای آل داوود بشکرانه نعمت من عمل کنید وقلیل من عبادی الشکور اما از بندگان من انهایی که شکورند انهایی که شکر گزارند کم هستند بندگان شکر گزار کمند ما از اون کم نباشیم ما ارز کنم از اون کم باشیم از اون ناسپاس ها و ناشاکر ها نباشیم سعی بکنیم از همون ای که ہمیشه شکر گزارند اللہ شاکران را دوست دارد بلاخره سلیمان انقدر از اینها کار گرفت و کار گرفت تا آخرین لحظات زندگی از اینها کار گرفت آیه بعد میگه سلیمان بیت المقدس را تجدید بنا کرد بناش را نو کرد اونجا کی کار می کرد جنات کار میکردند. کردن حضرت سلیمان در اون محراب یعنی عبادت خانه مقصود سے خودش که بعضی مفسرین نوشتند شیشه‌ای بود یعنی بیرون را می دید، از بیرون او را می همون همونجا نشسته و داره جنات را تماشا میکنند جنات دارن مسجد الاقصی را میسازند به کوب کار هست تند تند کار هست و سلیمان علیه الصلاۃ در همون حالی که بر عصای خودش تکیه دادی بود و نگاه میکردین ها را الله تعالی موت سلیمان را آورد اوت کرد. سلیمان وفات کرد. جنات خبر نداشتن که سلیمان وفات کرده. جنات داشتن کار میکردند. خداوند میخواست که این کار تکمیل بشه. لذا اونا داشتن کار میکردند. دو سلیمان همونطور تکی بود. جنات فکر میکردند هنوز زنده هست تا اینکه کار مسجد دلخسا تمام شد. بنای بی پایان رسید. از طرف موریانه بود اونجا اون موریانه داشت اثار میخورد وقتی که کار تمام شد کار موریانم تمام شد اثار شکست سلیمان افتاد روی زمین آمدن دیدن دیر وقتی فوت کردیم این بنده خدا لذا جنات گفتن از جیب ما رفته تا این همه کار مفت کردیم، ما فکر کردیم زنده است. و اینجا قرآن میگه جنات متوجه شدند یا این مسئله واضح شد خود جنات از قبل متوجه بودند این مسئله روشن شد برای همگان که جن ادیامی کنی ما غیب میدانیم غیب نمیدونه اگر غیب میدانیست میدونی سلیمان وفات کرده از دهمتری خودش جن خبر نداره چه خبره اما چقدر بود اکثرا تفسیرها نوشته یک سال یک سال تمام سلیمان تکیه داده بود اما این روایت روایت ضعیفی هست این روایت یک سال ضعیف است با عقل همزیاد همخانی نداره الله بهتر میدونه چند روز بود یا چند ساعت بود چند ساعت که سلیمان و السلام دیگه از صبح تا بعد ظهر تا شب داشت نگاه میکرد دیگه موریانه از صبح کارش را شروع کرده بود تا شب چون قرآن این موریانه و عصا و تکیره نام برده ببینی آیره اللہ می فرمائد فلما قضینا علیه الموت علیه الموت زمانی که ما فیصله کردیم بر سلیمان موت را ببین سلیمان با این کب و دب بادها در اختیارش هست جنات در اختیارش هست پرندگان همه لشکری او هستند ولی وقتی موت می آید با چه الله می فرمید فلم ما قضینا علیه الموت زمانی که ما فیصل کردیم بر سلیمان موت را ما دلهم علی موتی راهنمایی نکرد بر موت سلیمان اون جنات را الا دابت الارض، مگر دابت الارض، دابت الابر عموما نوشتن موریانه. اما ما می که دابت الارض ترجمش موریانه نیست. دابت الارض به هر موجود زنده دابه میگویند. کل ما یادبب علی الارض، هر چی که روی زمین تاکان میخوره و حرکت میکنه و زنده است و حیات داره انسان ارض. انسانها دابتال ارضند، گوسفند دابتال ارضه، بقیه حیوانات درندگان در دابتال ارض ازند، حشرات. لذا بعضی گفته معلوم نیست چه حیوانی هست که او آمد و اسارت خورد تا اینکه تا اینکه سلیمان آلے السلام سلام موتش ظاهر شد. لذا الله می ما دل لهم على موتی انها را راه نکرد بر موت سلیمان الا دابت الارض مگر ان موجود زنده زمینی تأكل من ساعته می خرد اورا، او را فلما خر را زمانی که افتاد سلیمان افتاد تبینت الجن واضح شد برای جن وازه شد که جن برا جنات این مسئلے این که اگر غیب می دانستند ما لبسو فی العذاب المحین اینها در این عذاب محین نبودند عذاب ذلت بار چند وقت بود با ذلت کار می کردند مفت کار می کردند لذا گفتا اگر ما شمعی از غیب می دانستیم ذره غیب می دانستیم این همه روز کار نمی کردیم لقد کان لسبین تا اینجا داستان سلیمان تمام شد خدای از و چه امکاناتی داد اما خدا ازو شکر خواست من تو ای بنده خدا به ما هم هر نعمتی داده از ما شکر می خدا خدا را بندگان شاکر بگرداند حالا ببینید داستان بندگان ناشاکر را داستان بندگان ناشاکر را گاهی داستان قوم صبر را می خانیم به فکر خودمون میافتیم که خدا نکنه نا ما ناشاکر بشیم ما امروز همیشه داد میزنیم از نداری از نداشتن در حالی که سفره های ما از گذشته بهتر شده ماشین های ما از گذشته مدل بالاتر شده ساختمان های ما از گذشته تازه‌تر و نوتر شده عموما الاف در جامعه فقیر و نادارم زیاده نباید انسان اینقدر شعار ناشاکی بده مگر در گذشته پدران ما چی می خوردن امروز ما چی می خوریم در با باونها خیلی خدا به ما مال داده خیلی به ما خدا رفاه داده همه زندگی ما ماشینی شده زندگی ما با یک دکمه ای تمام کار میشه آقا میاد اصلاً چه امکاناتی خدا قرار داده اصلاً میاد با ماشین میاد خود به خود در باز میشه چیزی نمیدونی نمی از کجا در باز شد وارد میشه خود به خود لامپ روشن میشه به صورت خود کار اینقدر خدا امکانات هنوز میگه که چیزی نداریم مثلا الله تعالی داستان این قوم سبا را که این دست سوره هم سوره سباس ذکر میکنه اینا ناشاکر بودند نعمت خدا زیاد داده بود گفتند اینقدر ما خسته شدیم از این همه نعمت ها از این همه باغ باغاتشون بیاندازه بود که مثلا یک مسیر ست کیلومتری میخواستن مسافرت بکنن میگفت نمیچسپه چرا نمیچسپه چرا لذت بخش نیست این سفر میگفت سفری خوبه که انسان گرسنه نبشه انسان تشنه بشه، انسان عرق بکنه، انسان خسته بشه ما از اینجا میریم از زیر این درخت، اون درختی درخت دیگه، زیر درختی دیگه اینجا هم میوه است، اونجا آب خونک هست، اونجا میوه دیگه هست همیش ما بخور بخور هست و سفر میکنیم اصلا احساس نمیکنیم، ما داریم سفر میکنیم لذا میگفتن که فقال ربنا باعد بین اصفارنا پروردگار بین سفرهای ما یک مسافت طولانی باشه ما خسته بشیم تا بعدن لطف و لذت استراحت و زیر سایه بودن و آب خونک را بعدن ما احساس بکنیم اے الله تعالی نعمتی داده همون رجل شکل گزار باشی یک سال یادم هست ماه رمضان در زمستان بود بعضی دوستان میگفتن روزه در تابستان می چسبه انسان تشنه بشه. نه الله تعالی نعمتی داده هیچ گرستننی نمیشه تشنه نمیشه معلوم نمیشه روز چطور میگذاره چرا خودت برای خودت آرزوی گرمی و عرق و تشنگی و لبان خشک می‌کنی نعمتی که خدا داده نز نعمتش استفاده کن لذا اینها همین ناس را کردند حال این قوم سبا کی هست خدمتی شما عرض کردم سبا نام پادشاهی بود شخصی بود ابن عباس میفرماید ده تا فرزند داشت شش تا فرزندش در یمن بودند چهار تا فرزندش در شام بودند اینها فرزندانشون شهرها را آباد کردند اصلا شهری که در یمن بود به نام اینها ثبت شد بعد دو تا کوه بزرگ بودند که از وسط این کوها یک رودخانه ای بود آب بود این آب همینطور رها بود تا اینکه پادشاهانی اونجا اون زمان توفیق پیدا کردند یه سد درست کردند این صد صد صد که این سد اسمش سد مقاره سدی که این سد در قرآن مجید هم اسمش آمده ذکرش آمده الان در کدوم منطقه هست این صد دقیقا الله بهتر میداند در تفسیرها خیلی اختلاف است در این رابطه علماء بیشتر می گویند که در جنوب معارب در کوه ابلق میان دکو یک وادی بزرگ به نام وادی آزینه اونجا این صد درست شد بین دکو را دهنه دکو را بستند و صد بسیار بزرگی درست شد هر چی آب می آمد، اونجا ذخیره می شد. و این آب کم کم میرفت مردم باغ درست کردند مردم کشاورزی درست کردند چنان محصولات زیاد شد تا چندین کیلومتر حتی بعضی ها نوشتند از شام از یمن تا شام تمامش همین مسیر پر باغ بود والمراد بالقرى التي بورك فيها قرى شام، این قریه های شام تا اونجا شهرای بود دو طرف همیش باغ بود از یمن تا شام یک مسافت بسیار طولانی از بعضی عزیزان دیدن میگن تمامش کویره اون زمان همیش اینجا باغ بود بالاخره اینها را خدای تعالی این نعمتها را بهشون داده بود و اینها ناسپاسی کردند ناشاکری کردند نه نا به توحید ایمان داشتند نه به قیامت و نه در مقابل این نعمت های خدا سپاسگزار شدند پیغمبرانی گرچه تفصیلش در قرآن نیامده برای اونها مبعوض شده اونها حرف شنوی نداشتند و گفتن خدایا این سفر این همه نعمت این همه درخت اینا درد نمیخوره طوری باشه که سفر وقتی می کنیم از اینجا تا اونجا بریم خوب خسته بشیم خوب عرق بکنیم خورشید بزنه اصلا سایه نبینیم خدای تعالی فرمود خوبه پس سد شکست سد که شکست این صد معارب شکست آب آمد تمام همین باغهایی که در دو طرف جاده بودند، دو طرف این شهر بودن همه باغها را از بین برد اثری از درخت نماند اثری از آبادی نماند چی ماند اونجا خداوند می‌فرماید چند چیز مختصر یکی ش... گز شور گز به اصطلاح که بیشتر برای جاهای ریگستانی هست و جاهای اونجا آبادی نیست چند تا شوره گز بود و چند درخت صدر به اسطلاح درخت کنر باقی من دیگه همه باغهاشون را خداون نابود کرد و برای همیشه از اونها گرفت قومی که ناسپاس باشه نعمت خدا را این میشه نتیجهش اللہ می فرماید لقد کان لسبعین فی مسکنهیم همانا برای سبع در مسکن و خانه هایشان آیت النشانی بود جنتان عیمین و شمال دونو باغ بودن راست و چپ یعنی بازی هر راست بازی هر چپه مسیر کلوم رزق ربکم الله به انها تلقین کرد شکرا به انها گفت بخورید از رزق پروردگارتان واشکرو له شاکر خدا باشید شکر کنید نعمتی خدا داده سپاس گزار باش بلده و ورب غفور الله می فرماید بلده یعنی هاذه بلده این شهری هست بشما دادم طيبه شهر زیبا همیش باغ و بستان همیش میوه و گلها و رب غفور بالا سر رب غفوری داری چی می خواهی این همه نعمت داری رب تهم بخشاینده و غفور است پس بخور شاکر ربت باش او را عبادت کن ناشاکر نکن دنیات هم خوبه آخرتت هم خوبه اما فاعرضون ائراز کردند ائراز کردن یعنی نافرمانی کردند هر پیامی و دستوری که خدا به داده بود چه در باب توحید بود چه در باب قیامت بود چه در باب احکام بود دیگر آرزو یعنی نادیده گرفتند فارسلنا عليهم سيل العرم الله می فرماید ما فرستادیم بر آنها سیل العرم را اسم منطقه عرم بود سیل آمد و این سیل صدر شکست سد شکست تمام باغات ویران شد چی باقی ماند اونجا الله می فرماید وبدلناهم بجنتهم اون دو تا باقی که دو طرف جاده بودند همه نو میوه الان دو طرف جاده چی بود؟ جنتین دو طباغ بود دو طباغ یعنی دو نوباغ چی بود اونا؟ زواته اکلن خمتن دارای میوه تلخ یعنی میوه درست صحابی هم نداشتن میوه تلخی بود و اصلن اصل یعنی شورگز و وشیئی من صدر قلیل و تعداد اندکی صدر و کنر بود دیگه هیچی برای شماقی نماند پس صدر و شورگز برای شماد شو اگر میوه بود میوه هم تلخ و خرابی بود اللہ میفرماید این دلیل عذاب چی بود ذالک جزینا هم به ما کفرو این جزا را ما به اونها جزا دادیم ذالک الجزا جزینا هم این جزا را ما به اونها دادیم به سبب ناسپاسیشان به سبب کفرشان یعنی که اعتراض کردن دعوت خدا را لبیک نگفتند یعنی که ناشکر نعمت های خدا بودند و هل نجازی الا الكفور خداوند می فرماید ما پاداش بد نمی دهیم مگر انسان ناشاکر را پس یکی از بزرگترین مریضی اینکه انسان ناشاکر باشد، هیچ وقت ناشاکیر نباید. حتی اگر از طرف خدا تعالی امتحان سخت میاد، مریزی میاد، کسی میگه که چطور هستی؟ نگو از, صبح از شب تا صبح خواب نداشتم، داد کشیدم. اگر میخوای شکایت تر را بکنی، هم بعدها بکن. اول بگو الحمدلله یا الحمدلله علی کل حال. بعدن برای کسی وضعیت ترا شر میده شر بده بعضی میگه خدا منو خیلی گرفتار کرده این کلمات را نگویید شر را هیچ وقت گرچه خالق خیر و شر الله است ولی شر را به خودت نسبت بده میگه اعمال من باعث شده لذا الله می و هل نجازی الا الكفور ما پاداش و جزا مگر انسان های پاس را و جعلنا بینهم فيها چد و بین القرى اللتی بارکنا فیها غبلا خداون چه قریه های و چه روستایی بیشن داد بود اللہ می فرمه ما غرار دادیم بین آنها و بین قریه های که ما برکتا داختیم در اون قریه اون قریه کی بود؟ قریه شام التي بارکنا فيها قرشام، و ذالک بکسرت اشجارها و اسمارها و توصیعت على اهلها خیلی درخت داره خیلی سرسبزه خیلی آباده خیلی نعمت شام لذا خداوند میفهمه التي اللتی بارکنا برکات دادیم البته برکات ظاهری همین با است و آبادی ظاهری برکات مانوی محبت انبیاء اونجا همه انبیاء اونجا فرود آمدند نزول کردند خب بین یمن و بین شام یا بین ارض کنم همین صد یا باغات اینها الله می فرماید که قرآن ظاهره قريه بود که ظاهر بود ظاهر بود, بود یعنی اون کناره جاده بود همگان می دیدند و قدر نافی هست سیر و سیر و رفتار را ماچکار کردیم مناسب قرار دادید یعنی هر وقت شما می خواستید به امدازه چندین کیلومتر سفر بکنید سیر خوبی می داشته باشید راحت برید هر جدلت خواست بشین آب بخور سایه استفاده بکن میوه استفاده بکن بعد برو هیچ زیقی نبود هیچ تنگی نبود سیرو فيها لیالی و ایاما آمینین به اون قوم گفتیم ای اهل سبا ای باشندگان شهر سبا برید همین مسیر کارایتون ربو کنید سفرهایتون رداشت باشید لیالی شبها و ایاما روزها آمینین ایمن باشید هیچ پروانه کنید امنیت همیش تو شهرها داری زندگی مسافرت میکنید چنان آبادی زیاد بود اما انها حماقت آنها ربی اونها آنها گفتند نه این طور خوب نیست فقالوا ربنا به زبان قال نگفتم میگم به زبان حال میگفتند یعنی حال حالشون این دلالت را کرد گفتم بار الها بعد بین اسفارنا بین سفر های ما فاصله ایجاد کن از اینجا تا اون میرین فاصله باشه هیچی در وسط نباشه باقی نباشه بستانی نباشه و ظلموا انفسهم الله می فرماید این قوم با این خاسته بر خود ظلم کردند وقتی که بر خود ظلم کردند فجعلناهم احادیث ما اونها رو نابود کردیم امروز اونها به عنوان فقط حدیث و سخن هستند یعنی افسانه داستان دیگه هیچ فجعلناهم احادیث و مزقناهم کلا ممزق ما اونها را تکه تکه کردیم یعنی از بین بردیم، از بین بردن کامل. ان فی ذالک لآیات لكل صبار شکور. خداوند می‌فرماد در این ماجرای فی ذالک، یعنی در این ماجرای قوم سبا آیات و نشانات هست. از این نشانات کی استفاده میکنه؟ لکل صبار شکور. هر بنده صبار و شکور. ما سعی بکنیم صبار و شکور باشیم صبر به کی میگویند اونه که در وقت مصیبت صبر میکنه شکور که در وقت نعمت شکر میکنه الله تعالی بندرا دوست داره که صبار و شکور باشه رسول الله صلی الله علیه و فرمود امر مؤمن عجیبه میخاید در هر دو صورت به شما اجر برسد این سخن رسول الله را توجه کن. فرمود که کار مامین، معامله ی عجیبه. اگر خدا بهش نعمتی بده، اگر خدا برایش مصیبتی بیاره، صبر میکنه عجر میگیره. اگر بیش نعمتی بده، بی شکر میکنه باز هم میگیره. یعنی برات مصیبتی بیاد هم برایت آجره، برایت نعمتی بیاد هم برات برایت کسی فرزندش را خدا ازش میگیره هم اجر بیش فرزندی میده هم براش اجره چرا؟ اگه ازش میگیره صبر میکنه، اگه بیش میده شکر میکنه. پس الله تعالی میفرم: در ماجرای قوم سبا آیات و نشانات هست برای هر اون انسان هایی که صبر باشند در وقت مصیبت صبر بکنند شکر باشند در وقت نعمت. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه انجا خداوند گلائمی فرماید از انسانهای بی وفا این انسانهای که بی ربشون وفا ندارند و وفادار به ابلیس هستند انجا این قوم که حلاق شد و نابود شد ابلیس موفق شد انها را فریب بده ابلیس موفق شد که افسار اینها را به دست بگیره مگه ابلیس قسم نخورده بود لا احتنکن ذریاته خدا یا آدم را که بر من برتر کردی من باید ذریه و اولاد او را افسارش را به دست بگیرم لگامشون را به دست بگیرم هر سمتی که من ببرم باید بیام با من من, من میبرم به جهنم اینها را لذا خدا من می فرماید ولقد صدق ابلیس ظنه ابلیس گمان خودش را اینجا صادق کرد اینجا درست کرد گمان ابلیس چی بود گمان ابلیس شما در قرآن می خانین ابلیس به خدا گفت ای خدا تو من گمراه کردیم منم کاری می با این بندگانت که ولا تجدو اکثر هم شاکرین اکثر اینها را شاکر نمی بینی. ابلیس چنان واسوسی می در درون ما کہ اکثر شاکر نیستیم ناشاکرین لذا این ناشاکرین پس این قول ابلیس که وَلَا تَجِدُو اَكْسَرَ هم شاکرین این قول را در حق اینها صادق کرد وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس زَنَّهُ ابلیس گمانش را در حق اینها صادق کرد فَاتَّبَعُوهُ ابلیس را پیروی کردند الا فریقا من المؤمنین مگر گروهی از مؤمنین او را اتباع نکردند بقیه اتباع کردند اهل دنیا اکثرا دنبال روی شیطان هستند شما الان نگاه کنی اکثرا کفار که شک نیست مسلمانان اغل هستند بعض از میان مسلمانان هم اکثر مسلمانان هم دنبال روی شیطان هستند اکثر مسلمانان پای بندند یا غیر پای بند نماز نمی خونند شما نگاه بکنید جمعیتی که تو مساجد هست نسبت به جمعیتی که تو خونه ها هست خیلی کم تره اکثرا نماز نمی خونند اکثرا زکاة نمی دهند اکثرا از گناه خودشون را دور نمی کنند اکثرا چشمشون گوششون پاک نیست پس و لا تجدو اکثرا مشاکنین همینه فت تبعوهو همه از ابلیس کردن الا فریقا من المؤمنین مگر گروهی از مؤمنین اما شیطان انطور نیست که تسلط داشته باشه به زور منو گمراه بکنه الله فرمای انسان خودش میره دنبالش و ما کان له علیهم من سلطان نیست برای شیطان بر انسان ها هیچ نو شیطان که میگه چقدر زور داره زوری نداره قدرتی نداره اون فقط قدرت وسوسه داره هی hey, تو دل میاندازه انکار بکن انکار بکن انکار بکن انسان غوی انسان مؤمن انسانی که در درونش تقوا باشه میسته در مقابلش و ما کان له علیه من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالاخره ممن هو منها فی شک الله میفرانا فقط اینقدر هست که ما نشان بدیم خدا که میداند داند لنعلم یعنی لنرا که چه کسی ابلیس را پیروی می کند چه کسی نمی کند من یؤمنو بالآخره چه کسی ایمان به آخرت دارد ممن هو من هو منها فی شک از اون کسانی که انها در شک استند جد توجب فرمایید معلوم میشه که اعمال ما که خوب و خراب در واقع بستگی به اعتقاد ما داره اگر اعتقاد من و توک به قیامت کامل است یقین ما کامل است اون وقت نه گناه میکنه چشم ما نه زبان ما نه حد از کنم گوش ما نه مال ما در مال خیانت میاد نه در جان خیانت میاد در هیچ چیزی نمیاد نه ربا میاد نه رشو میاد نه کلاهبرداری میاد نه بدگویی مردم نه دل شکستن هیچ چیزی از این خبران نیست کسی که یقینش کامل باشه، کسی که شک و تردید داشته باشه، معلوم است که باشه نباشه لذا کار رانجام را میده، کار خلاف را. پس ابلیس هم سایش هم همینه که اعتقاد و اعتماد را نسبت به قیامت ضعیف بکنه تا ما بدانیم یعنی نشان بدیم من یؤمن به الآخره چه کسی ایمان به آخرت دارد ممن هو منها فی شک از اون کسی که اون در شک است و ربک على کل شیء حفیظ پروردگار تو هر چیزی را حفظ کرده یعنی نگهبانی هر چیزی هست هر چیزی تحت کنترل پروردگار لذا اگر کسی ایمان داشته باشه کسی ایمان داشته نباشه کسی شک داشته باشه کسی یقین داشته باشه الله میداند قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى لَعَلَى هُدًا او فی ضلال مبین قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عم أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ در آيات ابتدائی ان سوره مبارکه سوره سبا هم احوال بعضی از انبیاء گزشت خاندیم مثل داود و سلیمان و هم احوال قوم سبا را که خلاصه احوال قوم سبا این بود خداوند به این قوم نعمت فراوان داد خدای عزوجل جل الطاف بی کران فرمود اما وقتی که این قوم ناشاکری کرد، ناس، ناسپاسی کرد، خدا از اونها ها را گرفت و هم اونها را به عذاب مبتلا کرد، به عذاب گرفتار کرد. بعد از این که ذکر این اقوام آمد که همه اینها درس هستند، همه اینها عبرت هستند، همه اینها عبرت آموزند، بعد از این خدای از زوجل اصل هدف را بیان می فرماید از اینجا تا آخر سوره اون انتظاری که رب از بندگان خودش داره اون را مطرح می فرماید اون را بیان می‌فرماید فرماید خداوند از بندگانش اینه که بندگان به جای اینکه فقط خدا را پرستش بکنند فقط خدا را عبادت کنند در مقابل خدا تسلیم بشند بندگان میرم به سوی غیر خدا و کسانی را شخصیتهایی را افرادی را اما از فرشته انسان جن کسانی را عبادت میکنند که همه بنده خدا همه مخلوق خدا کیه که مخلوق خدا نباشه کیه که عبد خدا نباشه آخر. عبد و معبود فرق میکنه. عبد برای عبادت معبود برای اینه که عبادت بشه چرا بندگان می روند را بندگی می کنند عبادی که خودشون کارشون وظیفشون عبادت است اگر اونها به جایگاهی از تقرب خدا رسیدن به خاطر عبادت رسیدن چرا بیایم اونها ان را معبود قرار بدیم چرا معبود همون ذاتی را قرار ندیم که همین بندگان خودشون همون را عبادت کردن اما بحانهی که اهل شرک دارند اهل خرافات دارند این بحانه ها از قدیم الایام بوده امروز هم همین عنوان هست میگویند ما اینها را عبادت میکنیم تا اینها واسطه وسیله بین ما و بین خدا بشند عموماً همین خیلی کم هستن که بگن اینها را ما مثل خدا همونقدر قدرت دارم میگن اینها باسطه اند برای ما اینها سفارش ما را پیش خدا میکنند برای اینها وقتی که ما گوزفند میکشیم برای اینها وقتی ما شطر میکشیم برای اینها وقتی ما نغل و نبات به نام اینها و به خوشنودی روح اینها تقسیم میکنند اینها از ما راضی میشند اینا که از ما راضی بشند سفارش ما را پیش خدا می کنند خداوند تعالی می فرماید این آلحه اینا را شما در واقع اله گرفتید اله یعنی هر چیزی و هر کسی که غیر خدا عبادت بشه در عبادت مورد قصد و تعظیم قرار بگیره اون اله است الله می فرماید اینها آخه چه قدرتی دارند؟ بندگان من هستند، فرشتگان هستند، ولی چی قدرتی دارند؟ قلدعو الذین زعمتم، الله می فرماید بگو، بخانید شما، فریاد بزنید، صدا کنید، الذین زعمتم اونهایی که شما می من دون الله غیر از خدا، اونا را غیر از خدا معبود میپندارید غیر از خدا آلیحه میپندارید غیر از خدا اونا را حاجت رواه خودتون میپندارید شما اونها صدا بزنید اونا چیکار میتونم برای شما بکنند و خداوند میفرمید لا یم مثقال ظررت فی السماوات ولا فی الارد به اندازه یک ذره ذره کوچکترین چیزی که در دنیا وجود داره اسمش ذره هست به اندازه یک ذره در آسمان ها مثقال به اندازه معنیش از اندازه به اندازه یک ذره نه در ها و در زمین اونها قدرت و مالکیتی ندارن یعنی تصرفی ندارن مردم بعضی مردم را میگیم چرا شما اولیاء خدا را صدا میزنید میگه خدا به اینها تصرفات داده چرا ایمه را صدا میزن میگه خدا به اینها تصرفات و اختیارات داده ببینید خدا چی میگه خدا میگه لا یم لکونم اسقال زررت به اندازه یک ذره هم اینها نه در آسمان ها و نه در زمین اینا تصرف ندارند اینا قدرت ندارند و نه تصرف و قدرتی دارند و نه با ما در خلق آسمان و زمین شریک بودند وما لهم فیهما من شرک در باره آسمان و زمین هیچنو شراکتی برای انها نیست اخ چرا شما انها را صدا میزنید وما لهم منهم من ظهیر مِن نیست برای خداوند از سو هیچ هیچنو حمایت و پشتیبانی یعنی خدا نیاز به حمایت انها نداره انها در خود، کنار خدا باشند اینها همه محتاجند همه بندگان خدا هستند همه نیازمندان به خدا هستند چرا شما اینها را صدا می زنید عزیزان کسانی که بزرگان را پیران را انبیاء را امامان را صدا می زنند و حاجت می طلبند میگن خدا به اونها؟ یک بخشی از اختیارات را داده این بخشی از اختیارات کجا نوشته آخه انسان را مسلمان را خدا عقل داده نباید دلیلی باشد برایش کجا نوشته اگر کتاب خدا قرآن از قرآن میگه لا همه را میفرماید ببینید بعضی میگه اینجا منظور نه نخیر اینجا منظور کسی عربی بلد باشه من دون الله یعنی هر کسی غیر خدا باشه چه پیغمبر باشه چه فرشته باشه بعد از این ذکر فرشته میاد به صورت خاص خداوند میفره فرشته را ببین وقتی که در عالم بالا خدا دستوری میده می فرشته از ترس پر میزنه لذا فرشته مگه چه قدرتی داره بس بس بوت نیست بعضی مردم را گمراه میکنند و مردم را فریم میدن میگه می این که تو قرآن آمده که نمیتونند بط ها را گفته اولیه را نگفته اینجا بوتار نگفته خدا من دون الله را گفته من دون الله یعنی هر چی غیر خدا باشه چه ولی باشه چه نبی باشه چه امام باشه چه ملک باشه چه جن باشه چه انس باشه الله می فرماید که اینها ن شراکتی دارند در اداره زمین و آسمان که اینا مدیریت در گذشته بعضی از عزیزان و مسئولین ما می میگفتن می که مدیریت این کشور ایمان را امام زمان داره انجام میده خدا می مدیریتی همه دنیا مالمانه هیچ کسی بغیر از خدا مدیریت نداره تصرف میشه شه همون مدیریت تدبیر همون مدیریت هست الله می که لا یملکون این مالک نیستند یعنی مدیریت ندارن به اندازه یک ذره چی می تونم بکنند نه اینها باران میتونم بدن، نه موت میتونم بدن، نه حیات میتونم بدن، نه از مریضی شفا میدن، نه درماندگی مال میدن، نه هو اغنا و اقنا، هر کسی را توانگر میکنه، پولدار میکنه، خدا میکنه، کسی دیگه نمیتونه بکنه، این اعتقاد قرآن هست که ما باید داشته باشیم، خب بعضی از مردم میگن خب سفارش مارا میکنند، خداوند می ولا تنفع تَنْفَعُ عنده عِنْدَهُ لمن اذن اَذِنَ لَهُ شفاعت هم برای در محضر پروردگار پیش خداوند هیچ شفاعتی نفعی نمیدهد، دهد مگر کسی را که خدا اجازه بده خدا خودش اجازه میده بند بنده قبلا برای طلاب عزیز شفاعت را سی قسم کردم شفاعتی هست که کسی معتقد باشه این معبود من قدرت داره نه خیر چنین شفاعتی نیست شفاعتی که بگیم خداوند الا یاز بالله گرفتار محبتش مجبور حرفش را قبول کنه چی شفاعتی نیست این هر دو شفاعت هر کسی اعتقاد داشته باشه کفره برای غیر خدا بگیم که خدا از آنها بیم داره یا خدا بیرو درواسی آنها گیر می کنه و به محبت آنها گرفتاره نه خداوند با کسی چنین محبتی داره که خدا گرفتارش بشه و نه خدا از کسی بیم داره چرا بندگان خودش را خداوند در روز قیامت این خلعت و این اکرام را به اونها میکنه میگه بندگان من میخواد خداوند به بعضی بندگان امتیاز بده به انبیا میده میگه که شما از امت های خودتون میتونید اونهایی که شرک نکردند اهل شرک قابل پرست بخشش نیستند به انبیاء میگه شما سفارش میکنید صلحا سفارش میکنند شهدا سفارش میکنند علما سفارش میکنند ازکنم نیکان سفارش میکنند خوبان سفارش میکنند عموم مؤمنین حتی سفارش میکنند ما در صحیح مسلم امشای حدیث را میخانیم که بعضی از مؤمنین در روز قیامت میگن خدایا ما دوستانی داشتیم رفقای داشتیم همسایه داشتیم همیشه هم با هم بودیم با هم نماز میخوندیم با هم جای میگشتیم ولی ما الان تو بهشتیم اونا تو جهنم اند خب اونا یک مشکلی داشتن که تو جهنم اند خدایا ما با هم بودیم اینجا هم با هم باشیم سفارش مارا در حق اونها بپذیر خداون میفرمو چون اونها مؤمنند، مومن اند دوستانشون مومن خدا می فرمد شما هر کسی را که می شناسید هست از تو جهنم درش بیارید شما اجازه دارید این مومنی میرند دوستان خودشون را اشنایان بقیه مومنین را که می شفاعت خدا به, به اونها خداون اجازه میده بیرون میارند بعد خدا می راضی هستیم میگه بله راضی خدا می من انوز راضی نیستم شما چون مومنید شما چون اهل ایمانید شما برید هر کسی که در قلب او به اندازه یک ذره، یک مسقال خیر هست، به اندازه یک مسقال خیر هست یعنی ایمان هست، اون هم شناسایی میشه دیگه علامت مشخصه، اون هم بردارید و بیرون کنید، میرن نگاه میکنند، هر کسی به اندازه یک مثقال ایمان داره همون را از جهنم، همی مؤمنین سفارش میکنن بعد خدا می که یک باری دیگه برید هر کسی در قلبش بیاندازه نیم مثقال ایمان از خیر هست اون هم بیرون کنید لذا هر کسی ذره ایمان داره که شرک نکرده با خدا همه را به وسیله سفارش مؤمنین این اکرام و این اعزاز را خدا خودش به مومنینش میده ده این نو شفاعت هست لذا الله می ولا تنفع الشفاعه عنده شفاعت نزد پروردگار نفعی ندارد مفید نیست الا لمن اذن له مگر برای کسی که خدا خودش اجازه بده حتا فرشتگان می ترسند سفارش بکنن حتا اذا فزع عن قلوبهم قالو ماذا قال ربكم خود اون اینجا یک صحنه را تعریف میکنه این صحنه مربوط به عالم آسمان است الله می فرموه حتی اذا فضی عن قلوبهم حتی وقتی که وحشت دلهایشون دور میشه شه می چه فرمود رب فرشتگان کوچکتر از فرشتگان بزرگتر میپرسند پرسند اونا می حق فرمود یعنی چه منظور چیه این آیه در صحیح بخاری خوب تفسیر شده در صحیح بخاری داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر وقتی که در آسمان ها خداوند دستوری میده امری صادر میکنه امری که صادر میکنه تا خداوند چیزی میفرماید فرشتگان تمام فرشتگان بزرگ که امر را دریافت میکنند پرمیزنند و صدای وحشتناکی تو آسمان میپیچد که همه فرشتگان میل و می ترزند بعدا اون امر خدا رو دریافت میکنه مثلا خدا دستور میده فلان کار رو بکنید بعد این فرشتگان پایینتر از اون فرشتگان بالاتر میپرسند که رب العالمین چی فرمود اونها میگن جای نگرانی نیست،, نیست حق فرمود فلان دستور را داد فلان حکم را صادر کرد لذا این صحنه در واقع نشان میده که فرشته خیلی وحشت زده میشه پس فرشته که اینقدر وحشت داره اون فرشته میتونه بدون اجازه خدا سفارش کنه که تو میگی فرشته دختر خداست و فرشته راه عبادت میکنی خطاب مشرک مکه است لذا الله می فرماید حتا اذا فزع عن قلوبهم حتی وقتی که وحشت دور کرده میشه از دل فرشتگان قالو ماذا قال ربكم میگویند رب چی فرمود قال الحق بقیه فرشتگان میگن حق فرمود وهو العلی الكبير او ذات هست برتر و بزرگتر از همه برتر و از همه بزرگتر است لذا پروردگار ذاتش چنین بزرگ و بلند و بالاست است و بعد خدای تعالی در ادامه دلیل ذکر میکنه آخی شما که غیر خدا را عبادت میکنید از غیر خدا حاجت میطلبید، مگر رزق شما به دست همین غیر خداست به شما کی رزق میده این را میگن دلیل اعترافی یعنی خدا دلیل چیزی را مطرح میکنه که مشرکین هم اعتراف داشتن که خدا رزق میده قل من یرزقكم من السماوات والارض بگو چی ذاتی هست که شما را میده از آسمان ها و زمین اونا جوابی ندارن خودت جواب بده قل الله بگو الله است الله وقتی که رسک میده چرا سجده میکنی غیرالله را چرا گزفن میکشی برای خوشنودی غیرالله و اینا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین ای پیامبر به بگو به مشرکین بگو همانا مایا شما بر یا بر گمراہی آشکار یکی از ما بر ہدایتی یکی بر گمراہی حال دلائل رب بینید ما دلائلی برای اینکه خدا یگانه هست چه دلائل قوی داریم چه دلائل عقلی داریم چه دلائلی داریم کائنات دلائل داریم،, دلائل داریم،, دلائل داریم شما چه دلیلی دارید پس معلوم میشه ما بر ہدایتیم و شما بر گمراہی قل لا تسالون اجرم نه. اجرمنا اپیان بر بینها بگو شما سوال نمیشید شما نمیشید. از اون جرمی که ما مرتکب میشیم ولا نسال عما عم تعملون و ما باز باس خاصه سوال نمیشیم از اون چیزی که شما عمل میکنید بالاخره یک روز همه ما خدا جمع میکند قل یجمع بیننا ربنا بگو رب ما بین ما جمع می فرماید همه ما را جمع می فرماید ثم یفتح بیننا بالحق سپس پروردگار بین ما فیصله حق می کند و هو الفتاح العلیم اون بهترین فیصله کننده و بهترین العلیم و دانا است بهترین داور دانا داور علیم او هست او فیصله می کند و شما چه دلیلی دارید وقتی که به محضر خدا حاضر بشید برای شرک خودتون قل ارونی الذین الحقتم بهی شرکا بگو بمن نشان بدهید اونها را شما ملحق کردید به خدا به عنوان شریک اینایی که شما با خدا شریکشون قرار دادید چه جنی را چه فرشته را چه انسی را شما بمن بگید دلیلتون چی چیه کلا کل الله میفرما هرگز دلیل ندارند بل هو الله العزیز الحکیم بلکه پروردگار ذاتی هست هم غالب و هم کارهای خداوند با حکمت هم. لذا عزیزان هدف بیست رسول الله صلی الله علیه و و تمام انبیاء همین یک نقطه است که ما انسان ها در زندگی مختصر دنیا بغیر از خدا هیچ کسی را عبادت نکنیم بغیر از خدا از هیچ کسی حاجت نہ ولی متاسفانه شیطان بعضی را گمراه کرده به وسیله یک سری هایی که بعضی را عرض کردم مردم را وادار میکنه که از غیر خدا کمک بخوارد لذا الله فرمد ای پیامبر اعلام کن ما ارسلنا که ما تو را نفرستادیم الا کافتا للناس مگر برای همه مردم بشیران و نذیرند هم مجددهنده هستی هم ترساننده هستی اونی که توحید را قبول میکنه اون را مجده میدی اونی که قبول نمیکنه اون را بیم میدی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اما اکثر مردم نمیدانند ببینید واقعا اکثر مردم نمیدانند اکثر مردم امروز در دنیا گرفتار چی هستند اکثر مردم گرفتار شرکند شما دنیا را یک مطالعه بکنید اقوام دنیار مطالبه کنید از یهود و مسیحی گرفته تا بقیه یا یک پیغمبر را میگه یکی اون پیغمبر را میگه فرزند خداست عیسی را میگه او را پرستش میکنه دیگری عزر را پرستش میکنه یکی مجسمه بودا را پرستش میکنه یکی آتش را پرستش میکنه یکی خورشید را پرستش میکنه یکی گاو را عبادت میکنه هر یکی یک چیزی را عبادت میکنه بعضی انسان های خوب را عبادت میکنند تنها دینی که سالم مانده خو خداوند عزوجل تضمیم فرموده که این سالم میماند دین اسلام است که الحمدلله تحریف نشده کتابش تغییر نیافته و این دین فقط ما را به یک تاپرستی دعوت میده الحمدلله علی نعمت الاسلام خدا چه نعمت خوبی به ما داده نعمت اسلام نعمت قرآن لذا ولكن اکثر الناس لا يعلمون اکثر مردم نمیدانند پس اینکه اکثریت بر یک مسیری باشند این دلیل حقانیتشون نیست اکثریت بر جمهوری هستند و وقتی که از عذاب خدا بیمشون بدهی بگی از آخرت بترس از عذاب بترس با مسخره میگوین و یقولونم متا هذا الوعدو ان کنتم صادقین این وعده کی هست اگر شما راست میگید قل لكم ميعاد بگو برای شما وعده یک روزی هست که لا تستاخرون عنه ساعتا از اون روز یک لحظه تاخیر نمیکنید ولا تستقدمون یک روز تقدیم هم نمیشه وقتی که بیاد میاد اما الله تعالی حکمت و مصلحت را در این گذاشته که وعده قیامت را و ساعت قیامت را نگید دو چیز را خدا مجهول گذاشته حتی از انبیا نامعلوم هستند یکی مرگ و یکی قیامت مرگ و قیامت باید نامعلوم بیشن اگر معلوم بیشن آقا بدونت که مثلا بعد از پنجا سال می میرے میگه تاوم وقت وقت زیاده هرچی دلش بخان میکنه ولی اگر احساس خطر بکنه شاید یک ساعتی دیگه بمیرم اون وقت این انسان اعمالش اصلاح میشه خوب میشه لذا قیامت هم حاک الله اللہ دو چیز را علمش را بکسی نگفت. بعد از اینکه که این دلائل گفته شد بعض هم خداوند از اززوجل از اناد و تعصب مشرکین و کفار سخن میفرماید. قرآن دلائلش قانی کننده قرآن واقعا خودش هم معجز اونا را عاجز و ناتوان کرد ولی اونا از روی تعصب گفتن نه لن نؤمن به هاست القرآن به این قرآن ما هرگز زیبان نمیاریم چون این قرآن خدایان ما را رد میکنه ملاک حق از نزل انها حق اونه که خدایان انها رتایید بکنه اللہ می فرماید وقال الذین کفروا گفتن کسانی که کفر کردن لن نؤمن بهذا القرآن هرگز هرگز ما ایمان نمی آوریم به این قرآن ولا بالذي بین يديه و اون کتاب که قبل از چون کتاب گذشته ہم هم اصل تو ان کتاب توحید و یک تاپر هست خداوند برای این گروه عذاب را ذکر می و تخویف ولو اذ الظالمون موقوفون عند ربهم اگر تو ببینی زمانی که ظالمان استادند در محظر رب همه ظالمان و مشرکان اونجا استادند یرجع بعضهم الى بعضن القول یعنی بعضی بر بعضی دیگر گناه را و سخن را برگردن بعضی دیگه میاندازه اونایی که اربابان کفرند اونا به تابعین خودشی میگن شما گمراه بودید اینا میگن نه شما گمراه بودید اینا میگن شما ما رو فریب دادید اونا میگن ما, نگ... ما فریب ندادیم ما یه چیزی گفتیم شما چرا قبول کردید هی با هم درگیرند یارجع عبادهم الی بعدن القول قول یعنی سخن تقصیر را برگردن هم دیگه میاندازن این خلاصش است تفصیلش چیه خدا خودش توضیح داده یقول الَّذین استضعفو لِلَّذین استکبرو می مستضعفین انهایی که تابع بودند انهایی که پیروف بودند پیروف شرک پیروف کفر میگوین به بمستقبران به اون اربابان و سنادید کفر و شرک من به تعبیر امروزی میخوام برای شما توضیح بدم اینهایی که پای برنامه های نشستند و سخنان شرکی و سخنان کفرامیز اونها رو گوش کردند بسیاری از عربابان کفر شب روز تبلیغ میکنند مردم را سوی گمراهی دعوت میکنند مردم را تشویق میکنند میگه اگر سوی ما آمدید اگر آمدی مثلا ارض میکنم تبشیری ها سوی ایسا مسیح اگر آمدی و از ایسا مسیح کمک خواستی روز قیامت برای چنین میشه در دنیا برای چنان میشه هی یک سری نویدهای دروغین لذا اینها به اونها میگن شما اگر نبودی ما گمراه نمیشدیم ما اگر برنامه شما را تماشا نمی کردیم ما اگر تبلیغ شما را نمیشنیدیم ما اگر این دروغهای شما را باور نمی کردیم هیچ وقت ما گمراه نمیشدیم این تابعان مریدان اون بزرگان خودشون را ملامت میکنند يقول الذين استضعفوا میگوین کسانی که ضعیف هستن مستضعفین للذین استکبرو بمستکبرین میگوین برواسای کفر و شرک میگوین لولا انتم لکنا مؤمنین اگر شما نبودیم ما مؤمن بودیم ما, بودیم ما مي ایمان می آوردیم شما مارا در هر جلسه گمراه کردید دروغ می گفتید، داستان تعریف می کردید، فلان قبر نجاد داد، فلان چاه نجاد داد، فلان آستانه کردیم داد، ماهمباور کردی، ماهمبراه شمار گرفتیم. قال اللذين استكبروا للذين استضعفوا اما اون رؤسای کفر به مستضعفین چی می گویند به تابعان خودشون چی می گویند میگن آنحضرت صدق ناكم عنيلهودا مگه ما شمار از هدایت بازداشتیم؟ ما گفتیم که بسوی ایمان نروید شما خودتون دنبال ما آمدید مگه ما زور شما را گمراه کردیم بعد از جاکم بعد از این که هدایت پیش شما آمد قرآن آمد توحید آمد ما گفتیم نرید شما شما خودتون نرفتید بلکن تم مجرمین بلکه خود شما مجرم بودید دنبال گناه دنبال شرک و دنبال معصیت و دنبال هواپرستی بودید ما را دنبال کردید ما کی گفتیم به شما اما اینها میگن شما بسیار خائنید، شما شب و روز تبلیغ میکردید شب و روز تو گوش ما میخاندید شب و روز به ما گفتید ما با خدا شریک بگیریم شب و روز به ما گفتید ما از غیر خدا حاجت بطلبیم، به ما ارزوهای و تمناهای و دروغهای تلغیم می که ما هم باور کردیم ما تحت تاثیر تبلیغات شما واقع شدیم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا می گویم مستضعفین یعنی مریدان تابعان پیروان لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِمُسْتَكْبِرَانِ بِرُعَسَاءِ کفر و مكر بَلْمَكْرُ والنهار بلك بلکه توتعی شما شب روز و تبلیغات دروغین و شرک آلود شما شب روز بود که از زمانی که مارا عمر کردید نكفر بالله ما با خدا کفر کنیم اونا نمیگفتن خدا را این کار کنید هیچ وقت کسی جرات نمی کنه خدا را قبول نکن اینطور بگه بلکه میگفتن و نجعل له اندادا این تفسیر انکفره است کفر بکنیم یعنی چه یعنی و نجعل له اندادا برای خدا شریک بگیریم شما ما را گفتید الان این کار میکنید شما مگر دلایل نمی آوردید شما پیش ما داستان و تعریف تاریف نمی کردی ما هم باور کردی و اصر الندامت لما رأو العذاب الله می فرماید هر دو گروه عذاب را می بینند جهنم را جلوی چشمیشون می بینند ندامت را تو دلشون مخفی کردند پشیمانند سخت پشیمانند ولی دیر شده کاش انسانی کے راہ گمراهی را داره تو دنیا پشیمان می شد راہ داره اما در آخرت پشیمان شدن فائده نداره لذا اللہ عذابشون را می فرماید وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ في أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا قرار می دهیم ما توقارا در گردن های کسانی که کفت کردن یعنی شرک کردن هل يُجْزَهُونَ الا ما كانوا يعملون پاداش نمی داده نمی مگر آنچه که عمل کردن خداوند بیش از عملشون انها را عذاب نمیده، ده بکیفر عمل نمی رسانه اندازه عمل عملش کفر شرک بدترین عذاب وما ارسلنا في قریت من نذير الا قال مطرفوها اینجا هم تخویف دنیاوی هست هم تسلی بر پیامبر است. به پیامبر خدا می فرماید که در هر قریهی که ما پیامبری مثل تو استادیم اونجا انسانهای خوشگذران، انسانهای عیاش انسانهای فودال سرمایدار اونها انکار میکردن لذا این سرداران مکه اگر انکار میکنه شما نرات نباش این عادتشون هست همیشه فقیر فقرا دنبال حق را گرفتند و ما ارسال ما نفر فی قریت من نذیر در هیچ قریه هیچ ترسانندی را الا قال مطرفوها مگر انسان های مطرف گفتند انسان هایی که در طرف بودن طرف یعنی خوشگذرانی عیش انها گفتند انا به ما ارسال کافرون بیه کافرین ای پیامبران ما نسبت به اونچه که شما فرستاده شدی آن. به گمان خودتون شما را خدا فرستاده ما منکرش هستیم ما کافرش هستیم ما قبولش نداریم چرا چه چیزی باعث باعث گمراهی شد چیزی که انسان بیچاره دار میده همیشه کسرت مال و اولاد است اونها چون مال زیاد داشتن فکر میکردند که دلیل مقبولیت یک انسان مال داشتن است چون پیامبران عموما نادار بودن مال نداشتند. گرچه اینکه خدا به کسی مال بده به کسی مال بده دلیل مقبولیتش هم نیست دلیل مبغوضیتش هم نیست و کسی را اگر خدا مال نداده هم دلیل مقبولیت نیست هم دلیل مبغوضیت نیست این مال بر اساس یک تقسیم دیگری که خدا بهتر میدونه لذا نه مالدار بودن نه دلیل سعادت نه دلیل شقاوت بسیاری از انبیا بودند هم فقیر بودند بسیاری از انبیا بودند مثل داوود و سلیمان پادشاه بودند بسیاری از صحابه بودن مثل ابو حریر فقیر بودن بسیاری صحابه مثل عثمان و عبد الرحمن من عوف سرمایدار بودن لذا کسی داشته باشه یا داشته نباشه این دلیل خوبی و خرابیش نیست دلیل خوبی و خرابی ایمان اگر ایمان از خوبی اگر نیست بدی با مال کار نداره اما این که انسان فکر بکنه چون من مال دارم من از همه این نظر و این دیدگاه دیدگاهی این مخالفین انبیا بود هیچ وقت کسی اگر مال داره فکر نکنه من از همه بهترم و اگر کسی مال نداره فکر نکنه من از همه بدترم اگر کسی توفیق داره ایمان داره تقوا داره اون فکر کنه از همه بهتره و اگر کسی اینها را نداره راهش گناه ماسیه خلاف اون فکر بکنه من از همه بدترم به مال هیچ وقت خوبی و خرابی را نسبت نده لذا الله می وقالو نحن اكثر اموالم و اولادا آنان گفتم ما بیشتریم از نظر مال و اولاد وما نحن بمعذبین ما عذاب داده نمیشیم به خاطر چون مال داریم می میفرماید قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر بگو همانا رب من فراخ میکند رزق را برای کسی که بخاند و یقدر تنگ میکند فراخی و تنگی به دست رب است ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعني مدار الرزق مشييت پروردگار است نه مقبولیت یک انسان اما اکثر مردم نمیدانند اکثر مردم فکر کنند کسی را که خدا مال داده فکر میکنه این محبوب خدا است کسی را که مال نداده فکر میکنه این مغروز خدا است نه اینطور نیست اللہ می فرماید وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا مال شما و اولاد شما نیست اون چیزی که شما را به ما نزدیک کنی یعنی هیچ کسی با مال و اولاد به خدا نزدیک نمیشه کسی فکر کنه که من مال و اولاد زیاد دارم من حتما قرب خدا دارم نه دلیل قرب خدا الا من آمن وعمل صالحا ایمان و عمل صالح چه مالدار باشی چه نادار باشی ایمان و عمل صالح اگر داشتی بدون با خدا نزدیکی اگر نداشتی از خدا دوری بس الله می‌فرماید: "ایلّا من آمّنا و عمل صالح، مگر اون انسانی که ایمان دارد و عمل صالح انجام می دهد لهم جزاء الضعف بما عملوا این گروه، این دست بر اونها جزاء چند برابر است بسبب سبب اعمالشان، و هم فل انها در روز قیامت در کاخ و در اتاقهای بهشتی آمنون ایمن هستند ایمنند هیچ خوفی و خطری ندارند والذین يسعون في آياتنا عاجزين الله می فرماید کسانی که بر علیه آیات ما اقدام میکنند تلاش میکنند که آیات ما را بی اثر بکنند ببینید آیات الهی را چه کسانی تلاش می کنند بی اثر بکنند کسانی که راه شرک و کفر را انتخاب کردند و دلایل پوچ در مقابل دلایل قرآن می شما بهش بگو که غیر از خدا هیچ که نمیتونه مشکلت را حل بکنه میگه چرا مشکل خیلی را حل کرد صاحب فلان قبر صاحب فلان آستانه و تا داستان می بافی. این در واقع سعی می کنه که آیات قرآن را چی بکنه. آجز بی اثر. الله می فرمه: والذین يسعون فی آياتنا معاجزين. کسانی که سعی می در درباره آیات ما، فی آیاتنا، یعنی فی ابطال آیاتنا، در ابطال و بی اثر کردن آیات ما، در حالی که معاجزين، به گمان خودش معاجز کنند. باشد انبیاء و موحدین را دعوتگران را الائک فی العذاب محضرون این افراد با این شیوه های خودشان در عذاب همیشه حاضرند اینا برای همیشه تو عذاب خدا قل ان ربی خب بحث مال و منال آمد خداوند من میفرماید که مال اگر بکسی زیاد بده یا کم بده اون رب است قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء بگو ربي من فراخ میکند رزق را برای هر کسی که بخواد من عبادی از بندگان خودش و يقدر له و هر کسی برای هر کسی که بخواد تنگ میکند یعنی خدا خودش تسمیم گرفته نه با ایمان انسان کار دارد نه با علم و سواد انسان کار دارد نه با زرنگی و استعداد انسان کار دارد خیلی ها هستند که ایمان ندارند مال دارند خیلی هستن ایمان دارند هم مال دارند بسیاری هستن ایمان دارند اما فقیرند بسیاری هستند بی ایمانند هم فقیرند پس معلوم میشه که دارومدار مال بر ایمان نیست بر علم و بر زرنگی هم نیست خیلی ها هستن که زرنگند سواد دارند مدرک بالا دارند هم گفتم اصلا رشته رشته بازرگانی و مدیریت و اقتصاد هست ولی پول ندارند نمیتونن در بیارند برای خودشون یک قوت لایموت گیرشون میاد نان شبی شاید گیرشون میاد خیلی هستند که بی سواد علم هیچ چی ندارند بگو اینجا اسمت را بنویس حاجی بیا امضا کن بلد نیست امضا بکنه میگه من انگشت میزنم ولی این غد پول داره که کامپیوتر ها هم آجازم پولش را حساب کنند معلوم که این تقسیم نبا ایمان و غیر ایمان کرداره نبا زرنگی و غیر زرنگی کرداره نبا سواد و غیر سواد کرداره این یک ترتیبه که الله خودش حکمتش را میدونه ما هم نمیفهمیم. لذا الله اللهم فرمايت قل إن ربي بقو همانا رب من يبسط الرزق فراخ مي كوند رزق را لمن يشاء براك كسي كي بخواهد من عباده از بندگان خودش ويقدر لبراك هر كسي كي بخواهد تنگ مي كوند وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه انتك شما خرج مي كونيد از هر چيزي در راه خدا فهو و یخلفهو الله جایش را پر می کند منظور اینه که اگر مال خدا بهت داده هم خرج کن چون این مال را خدا نداده که این را زخیره بکنی برای بعد از مرگت خرج کن هم برای خودت هم برای بقیه بینوایان خدا جایش را پر می کند و هو خیر و رازقین او بهترین رازق است او که تصمیم گرفته به تو بده تو هرچی به مردم بده از مالت کم نمیشه. و يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه دوباره بعد از بعضی از بحانه های مشرکین که ذکر شدند دوباره مسئله اولی تکرار میشه ببینید مشرکین ملائکه را پرستش میکردند قبلا هم و از ملائکه استمداد می طلبیدند خداوند میفرماید روز قیامت خداوند همه اینها را حشر میکنه مشرکین را هم از قبرها ها بلند میکنه ملائکه را هم حاضر میکنه از ملائکه و فرشتگان میپرسند که ای فرشتگان اینها شما را عبادت میکردند تو دنیا شما معبود مگه بودید اونا میگن خدا یا تو پاکی اینکه در کنار تو معبودی دیگه باشه کسی دیگه در کنار تو باشه که او را عبادت کنند او را فریاد بزنند از او کمک بخاند خدای تو پاکی و دوست ما تو هستی پروردگارا ما با تو دوستیم ما بندی تو هستیم اینا ما را عبادت نکردند جنات را عبادت کردند شیاطین اینها را فریب دادند و خودشون را بجای ما جا زدند یک تفسیر همینه خودشون را بجای ما جا زدند و یکی دیگه این که اینها اگر ما را عبادت کردن ما نگفتیم شیاطین به اینها گفتم فرشته ها را عبادت کنید خواستن اینها را به شر گرفتار بکنن حرف شیاطین را قبول کردن پس اینها در واقع شیاطین را عبادت کردن ما را عبادت نکردن لذا وقتی که فرشته که از همه برتر و بالاتر است قابل عبادت نیست بقیه چطور قابل عبادت هستن؟ اللہ می فرمات و یوم یحشرہم جمیعاً روزی که حشر می فرمات جمع میکند خدا هم را ثم یقول للملائکۃ سپاس میگوید به ملائکہ اها اولی یکم یعبدون آیا انہا شما را عبادت میکردند قالوا سبحانک فرجتہامی گویان بار الہ تو پاکی انت ولینا من دونہم تو ولی ما هستی تو حامی ما هستی تو ساز ما هستی بغیر از اینها اینها نیستن ولی ما توی بلکانو یعبدون الجن بلکی انها عبادت می کردن جنات را اکثر هم بهم مؤمنون اکثر اینها نسبت به جنات ایمان داشتن بی بی عبادت جنات و چطوره یکی اینکه جنات اینها رو می گفتن عبادت کنین جنات رو عبادت می کردن. یکی دیگر اینکه عبادت جنات بدونها هست. یکی به صورت مقصودی یکی غیر مقصودی مقصودی مثل خیلی از قبایل عرب بودن اونها اصلا میکفتن ما جنات رو عبادت میکنیم مثل قبیل خزاعہ بنوملی از خوزاعہ اونها میکفتن ما جن را عبادت میکنیم اما بعضی دیگر جن را عبادت نمیکنه ولی جن چنان فریبش میده میره جن را عبادت میکنه مطابق نیست جن را عبادت میکنه مثلا مشکل کارشون به مشکل گیر میکنه چیزی از پیششون گم میشه یا مریزی برایشون اتفاق میوفته مریزیه برای خودشون برای فرزندشون برای همسرشون بعدا جنات این را فریب میدن دن میکنه. البته جنات و انسان های گمراه هستن که با هم هماهنگ آهنگ هستن اینا پیش اون انسان ها می رون که بظاہر ملا اونها میگویند که شما این اوراد را بخانی این اوراد مثلا بخان بخونه تو اون کمک گرفتن از جنات فریاد زدن جنات این میشه شود عبادت کردن جنات همونطور که شما در مقدمه خاندید مثلا در زمان قدیم میگفتن یا رفتمایل یا دردمایل یا فلان فلانمایل این گفت اینا چیه گفت این اسامیه سرات جنات است اسمای اونها هستن تو همین برگه که بعضی از ماها نمیدونیم از ملاها میگیریم شما اگر باز کنید یا فلان و یا فلان اسمای عجیب و غریب نوشتن ما برای مریضی بچه‌مون یا برای گمشده ایمون که ماشین گمشده میریم اون رو میگیریم آویزان میکنیم نمیدونیم ما داریم جن را صدا میذاریم پس بعضی از عبادت جنات به این صورتی که مردم را وادار می‌کنه. یک کسی به من گفت گفت که یه جای خزانه ما پیدا کردیم با اون دستگاه فلزیاب بردیم خزانه پیدا شده رفتیم بزنیم بعدن تلسمی که اونجا هست مثلا ده متر بوده الان متر یادم نیست ده متر بوده ما که زدیم 20 متر دیگه پایین تر رفته بعدن همون ملایی که برای ما خونده گفته اینجا دوتا خون بیارید بریزید برای این جنات دوتا گوسفند بکشید بعدن اینا این خزانه را بشوامیدند درسته ما این کار را بکنیم الان خون ریختن یک عبادت مالی است این باید برای خدا باشه این طور مردم را رو روادار میکنم برم برای اونها خون بریزند یعنی عبادت مالی اونها انجام بگیره من گفتم اولا اون خزانه را هیچ وقت پیدا نمیکنه و هیچ وقت به اون نمی رسه اما علاوه از اون گرفتار شرک هم داری میشه شه بالفرض اگر یه وقتی پیداش بکنه به اون خزانه برسه آیا ارزش داره که ایمان را به انسان از دست بده؟ لذا کارهایی در دنیا یا افرادی مریض می میگن که فقط و فقط درمانش فلان سیک فلان هندو، پیش اون برو اونی جادو را آدم بلاخره پدر بیچاره برای فرزندش ناراحت هم میره هم مالش را میده هم ایمانش را میده چون وقتی که سحر بکنه باید شرک بکنه بعضی میگن خب پس چی کنیم سب کنید دیگه برای بعضی مریضی سروتان پیش میاد سرطان دکتر میگه شش ماه دیگه میمیری چی کار میکنیم صبر میکنی دیگه موت میاد آیا ما اگر برای ما مشکلی پیش آمد باید ایمانمون را دست بدیم تا بچی خوب بشه یا ماشینمون پیدا بشه نریم پیش اینها اینها گمراه هستند و ایمان را از ما میگیرن اللہ تعالی اینجا میفرماید که اینها فرشتگان خودشو میکن خدا اینا مارا عبادت نمی کردن اینا جنات را عبادت میکردن های دیگری جنات عبادتی جنات را گفتم برای شما در گذشته مردم وقتی که نمادهای غیر الله را عبادت میکردن مثلا می رفتن ایک سنگی را عبادت میکردن می, می رفتن بطی را عبادت میکردن اونجا جنی حلول کرده بود اینا صدا می زدند او گفت بله و بعد بعضی وقتا از غیب صدای می آمد که برو فلان جا پیش فلان شخص از اون راهنمایی بگیر اون شخص گمرکی بود یا برو چند تا گوسفند شطور بیاری جبوکش بعضی‌ها جنات تو خوابشون میاد ما خودمون همسایه داشتیم همه اساسی منزل را بار کرده و گفت دیشب خواب دیده فلان آقا صاحب را لذا بعضی مردم را به این صورت در خواب در بیداری فریب می دهند امروز هم فریب می دهند هیچ وقتی سعی کنید از جاده شریعت خارج نشید با خواب و بیداری کاری درست نمیشه لذا بعضی مردم میگن که رفتن کسانی به این مزارات تا تعرضی بکنند دستشون خشک شده یا ماری اونها را گزیده اینم شاید درست باشه اونجا هستن شیاطینی که دفاع میکنن نمیذارند کاری بشه من همون حدیث را که خواندم برای شما همون کافیه شما اصل مساله را بفهمید حضرت رسول صلی علیه و وسلم دستور داد به حضرت خالد ابن ولید بعد از اینکه که مکفت شد برید شما بطه را خراب بکنی بطه اوزار را خراب بکنی یا بعضی رویت ها بط منات را هر دو درسته یکی حضرت خالد را فرستاد یکی حضرت زید را فرستاد خب این بطا بطایی بودن که مردم سالها می رفتن عبادت می صدا می شنیدند نور می دیدند حرکات می دیدند مردم باور کرده بودند که اینجا چیزی هست حضرت خالد وقتی که رفت تخریب کرد بار دوم که رسول الله فرمود برو هنوز اوزار نزدی هنوز خرابش نکردی بار دوم وقتی که رفت او مجاور گفت میخوایی چیکار کنی گفت آمدم اززا را از بین ببرن گفت دونک اززا از خودت حمایت کن از خودت حفاظت کن بزن اینها را وقتی که خالد به سمت اون بوت رفت از درون او جنیه خارج شد که صحابه میگه ما دیدیم به سرش میزد و واویلا میکرد حضرت خالد متوجه شد حمله کرد با شمشیر زد او را بعد از این که او را کشت ناپدید شد رسول الله فرمود اوزه همین بود این همه وقت مردم را گمراه می کرد که مردم بالاخره بیشتر در شرک گرفتار بشند لذا اعتقاد و باور مردم صد در صد شده بود پس اون که قرآن میگه حق بلکان و عبدون الجن جنات بودن اینها را گمراه میکردن به این صورت مردم می رفتن جنات را عبادت میکردن. کردن اکثر هم بی هم مؤمنون اکثر اینها به جنات ایمان داشتن به ما نداشتن الله می فرماید فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ النَّفْعُ وَلَا امروز بعضی برای بعضی مالک النفع و ضرر نیست دیگر در دنیا شاید میتونستن برای هم دیگه کار بکنن اینجا هستند اون بعضی افراد بی ایمان که با جنات سرکار دارن جنات برایشون خبر میارند بعضی اخبار اگر از آسمان نتونن خبر بیارن از زمین خبر میاره فلان گمشده کجاست میگه موتورش فلان جا گذاشته بعدم میرین میبینه مطورش همون جا هست لذا بعضی از اخبار را درست میارند ولی تو حدیث آمده یک خبر یک راست سر هم میکنه اللہ می فرماید در دنیا به هم دیگه نفس می اما در اخرتنا فال یوم لبعض نفع. امروز مالک نیستید بعضی از شما برای بعضی نفع و نفرا ولا وضر و ترکردن zarar را و نقول للذین ظلموا و ما به اونهایی که در دنیا ظلم کردن یعنی شرک کردن ذوق عذاب النار بچشید عذاب آتش را التي کنتم بها تکذبون اب همون آتشی که شما آتش را تکذیب می کردید باورش نمی کردید اکثر مشرکان قیامت را قبول ندارن و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات و انها در دنیا طوری بودن وقتی آیات قرآن خاند می شد آیات قرآن با آیات قرآن مشرک خیلی مشکل داره با آیت قرآن خیلی ها هستن از همین خرافاتی ها تو همین شهر خودمان تو زاهدان این شهر هستن به جوانان توصیه میگه این درس های قرآن نرید گمراه میشید علیه حضبالله میگه درس قرآن نرید این ما رو گمراه میکنه نه شما رو وحابی میکنند وقتی خود قرآن گمراه میکنه چی طور هدایت میکنه اونها هم همین کار را میکردند اونها میگفتن نرید به سمت قرآن الله می فرماید و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات هر گاه بر اینها آیات واضحه ما رو می میشه ما هذا الا رجل و ان يصدكم گفتن نیست این مگر مردی هست به رسول الله اشاره میکردن این مرد چی میخواد بکنه يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم این اراده ندارد مگر اینکه میخواد شما را باز بدارد از اون معبودانی که پدران شما اونها را عبادت میکردن این خ جلوگیری و معبودان بشه نرید به سوی اون قرآنش را گوش نکنید. و قالوا ما هذا الا افکم افترا میگفتن این نیست مگر یک دروغی افترا شده ال عذب الله به قرآن می که پیغمبر از خودش درست کرده افترا کرده. وقالا الذيین که فرور للحقق. وقتی می دیدن که مردم همه گرویده قرآن میشن مردم متأثیر میشن، اون وقت می گفتن؟ می گفتن جادوی هست مردم را در مردم تاثیر می گذارد وقال الذين كفروا للحق گفتن کسانی که کف کردن نسبت به حق گفتن نسبت به قرآن گفتن لما جاؤهم وقت قرآن پیششون آمد گفتن این هذا الا سحر مبین نیست این مگر جادوی آشکاری هست این ایک جادوی آشکاری ہے اللہ تعالیٰ می فرماید آخی اینا از کجا می گوین جادوی آشکار بچه دلیل می گوین جادوی آشکار در حالی که وَمَا آتَيْنَاهُم من كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا ما قبل این قرآن به اینها حد کتاب های ندادیم که اونها رب خانن از روی اون کتاب های نا فیصله و غزوات میکنن وما ما ارسلنا الیهم قبلك من نذیر قبل استای محمد صلی الله علیه و سلم برای اینها هیچ ترساننده یه. یعنی هیچ پیامبری هم مانه فرستادیم از کجا میگوین این چیزها خب کسی قبلا یک علمی داشته علم آسمانی پیامبری از تعلیمات اون پیامبر استفاده بکن اینها بر چی میگوین وکذب الذين من قبلهم خداون اینجا تخویف میده بیم بیان میکنه میگه قبل از این قبل از این قریش مکه اقوام دیگه هم تکذیب کردند خب قریش میگفتن اونها اگر برای اونها عذاب آمد از بیبسیشون بود از ناداریشون بود از نبود امکاناتشون بود ما را کی میتونه بزنه ما لشکر جرار هستیم پول هم زیاد داریم اسلحه هم زیاد داریم قدرت دفاعی هم داریم کی میتونه ما را از بین ببره اللہ جواب داد. اللہ میفرماید ما بلغو معشار ما آتیناهم هم. اینام نرسی هم نرسیدم به یک دهم اون چیزی که ما به اونها دادیم اون چیزی که ما اقوام را دادیم هم از نظر ثروت هم از نظر قدرت بدنی کوها را میتراشیدند چنان تنومند بودن که خدا می فرماید لم یخلق مثلها فی البلاد مثل انها اصلا تو شهرها آفریده نشده در زمین آفریده نشده چنان تنومند و قوی حیکل و نیرومند ولی خدا حلاکشون کرد یعنی هیچ وقت انسان مغرور قدرتش نباشه امروز هم شاید دنیا بگه دنیا به تکنولوژیش و اهل دنیا بنازند بگند الان در قدیم اگر برای مردم مشکلات پیش آمده امکانات نبوده گی از ما مسلمانان صادله و هم میگند. اون زمان امکانات نبوده امروز امکانات هست تام مریضی میاد جلوش را می گیرن و اکش درست میکنن. چند سال آجزسشون کرد مریضی تمام دنیا عجزس شد ترامپ بیچاره گفتی یک شنبه برید تو کلیسا که دیگر راهی بغیر از دوانی نیست. یک غیر مسلمان حتی به دعا روی آورد لذا امروز خدای تعالی باوجود تکنولوژی شما می بینید، ما میبینیم خدای تعالی چه عذابهای میاره گاهی سونامی میاد شهرها از بین میبره مردم را با ماشینشون میبره با همین امکاناتی که ما میخوایم با اونا فرار بکنیم با همین هم میبره لذا وقتی که بیاید زلزله بیاید کی جلوی زلزله را میگیره این آتش فشانها گاهی که فواره میزنند و منفجر می شوند تمام اطرافشون را نابود میکنند کی میتونه کاری بکنه لذا هیچ وقت انسان مغرور نشه که من امکانات دارم من قدرت در اونم قریش مکه هم همینا هم میگفتند ما داریم خدا میفرما و می ما بلغ میعشار ما اعتناهم اون چیزی که ما به پیشینیان دادیم اینا یک دهم اون را نداشتن واقعا پیشینان امروز انسان تعجب میکنه بعضی از آثار قدرتشون رو میبینه امروز نکار کار دستگاه است نکار کار نکار نه همین کارهایی که شما بری نگاه بکنید به تخت جمشید شده یا همین کاری که در احرام مصر اینا را انسان ها درست کردند اون زمان چی بوده اینا را با چی درست کردند انسان میمونه که امکانات پیش رفته ما امروز نمی تونیم کارار بکنه پس اللہ تعالی می فرماید شما اونا رو ندیدید شما از نظر قدرت بی یک دهم اونها نمی رسید اما اونها چی کار کردند فکذب و رسولی پیانبران مران تکذیب کردن کتاب ها را تکذیب کردن فکیف کان نکیر یعنی گرفت من چقدر سخت بود چطور سخت من اونها را گرفتم اقوام عذاب هایشون تو قرآن ذکر شده ما تفصیل خاندیم همیرا لذا الله می فرماید درس بگیرید عبرت بگیرید قل انما اعیزکم در این رکوی آخر که آخرین رکوع سوره مبارکه سبا است الله تعالی مشرکین را دعوت به تفکر میده یک بار تنها بشید و فکر کنید به تنهایی بشینید یا دو دو نفر با هم بشینید یا سه سی نفر با هم بشینید اخی شما فکر بکنید که این محمد صلی الله علیه و سلم که ادیا می کند پیامبر خداست شما این را متهم می کنید به دیوانگی و به جنون شما با هم مشوره بکنید در کدوم روز، کدوم زمان، کدوم ماه، کدوم سال شما حرکت جنونامی زدی دیدید. یک روزی آیا حرکت خلاف عادت، خلاف عادی انجام داد یک روز سخن بیجای ایشون گفت اخی را که متهم به دیوانگی کنی نباید یک علامتی از دیوانگی تو باشد یا متهم به می کنی آیا یک روزی از این دروغ شنید بگو فلان سال فلان دروغ را گفته که بعدن بیای یا متهمش می‌کنی به سحر آیا تابحال دیدی دیدی با کوچکترین جادوگری این ارتباط داشته باشه یا متهمش میکنید به شعر آیا در طول زندگیش یک قطعه یک مسرح شعر هم سروده اخ شما فکر بکنید این اتهاماتی که شما بهش میزنید این اتهامات هیچ کدوم به اون نمیچسپد نمیخورد چرا تأثب دارید چرا زد و اناد دارید و الله تعالی دلیل میگیرد برای صداقت رسول الله از مصاحبت صاحب کم صاحب کن یعنی کسی که چهل سال شما باشداری زندگی میکنید اصلا زندگی چهل ساله پیغمبر را مطالب کنید این خودش بزرگترین دلیله اگر یک عیبی توش هست اگر یک لکی هست اگر یک ایرادی هست از نظر گفتار از نظر کردار از نظر اخلاق از نظر بزرگ اگر یک موردی توش هست پس بدون پیغمبر خدا نیست اما اگر نیست تجدید نظر کنید. اللهم يفرمه قل إنما أعزكم بواحدة أي محمد صلى الله عليه وسلم بإن قومت بقو من شمارة معزة ميكونن نسيحة ميكونن يك نسيحة أن تقوموا لله إنك شما قائم بشيد قيام كنيد برخيزيد بخاطر خدا مسنا د نفر وفرادا يتنهايي دو دو نفر بهم مشورة كنيد هم دیگر را بهتر میتونید کمک بکنید فرادا یا تنهایی ثم تفکروا سپس فکر بکنید درباره تمام زندگی رسول الله فکر بکنید به این نتیجه میرسید ما بصاحبکم من جننا صاحب شما این کسی که همیشه با شما همراه بوده هیچ جنونی ندارد هیچ نو دیوانگی در وجودش نیست بقیه ایوب اشکالاتی که میگید هم نیست اینو هو ایلا نذیر لکم نیست او مگر ترسانندهی برای شماست بین ید عذاب شدید از چی می ترساند؟ از جلوی خودش یعنی اون چیزی که در آینده هست از آینده عذاب شدیدی آینده میترسانه شما را شما حرفش را گوش کنید ببین گاهی یک کسی تبلیغ میکنه شاید هدفی دار استبلیغش شاید هدفی دار استبلیغش مثلا میخواد که مردم به اون پول بدن، مردم کمکش بکنند مردم به اون حقوق بدند ای پیام بر تو اعلام بکن من حقوق نمیخوام و پیغمبران چنان خداوند قرار داده که حتی برای پیغمبران خوردن صدقات ناجائزه نه اینکه خوردن صدقات برای خودشون برای اهل بیتشون حتی ناجائزه تا امروز اگر کسی ثابت بشه که واقعا از اولاد پیغمبر برای گرفتن زکاة و صدق حرام درست نیست یعنی خداوند اززوجل چنین پیغمبران را از مال مردم بدور نگه داشته که مردم فکر نکنند اینها چی، اینها به خاطر مال دارند کار میکنند و حتی مسئله دیگری که حضرت ابو بکر صدیق به فاطمت الزهرہ فرمود که رسول الله گفته نحن معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس ما جماعت انبیاء نا از کسی عرض میبریم و نه خودمون چیزی به عرض میگذاریم و ما ترکناه صدقه هر چی بذاریم صدقه یعنی اگر بالفرض پیغمبر باغی داشته باشد کاخی داشته باشد بعد از اینکه وفات بکنند اون باغ صدقه از اون مال پسر و دخترش نمیشه چرا؟ چون یه وقتی کسی فکر نکنه ایشون آمد مال جمع کرد برای اولادش گذاشت و رفت تاین اندازه لذا ایک مطلبی که با این آیه ارتباطی ندارد این را بگم که بعضی میگن خب بعد از پیغمبر خلافت و حکومت حق اهل بیت. اگر حق اهل بیت باشه پس معناش اینه که پیغمبر این همه سالها تلاش کرده دعوت داده تا حکومت تشکیل بشه و بعد از اون فرزندان اولادش حاکم بشن مردم بالاخره از اونها تبعیت بکنن در حالی که چنین چیزی نیست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ نفعی از مردم انتظار نداره لا اسالکم علیه اجرا من هیچ اجری نمیخوام الا الموده في القربان ده تفسیر کردم که بخاطر قرابتی که با من دارید بخاطر محبتی که با من دارید جلوی رای من را نگیرید بساری من تبلیغ میکنم نه اینکه شما چون محبت با من دارید اهل بیت من را دوست داشته باشید تو بعد از من خلافت و امامت را به آنها بدهید بس این عجر شد دیگه از یک طرف میگه من اجر نمیخوام از یک طرف طالب اجر شدیم نه بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را خداوند دستور میده قل ما سالتکم من اجر بگو من از شما هیچ اجر نخواستم فهو لکم که خواستم مال خود شما این اجری الا علی الله نیست اجر و پاداش من مگر بر الله و هو علی کل شیء شهید و اون الله بر هر چیزی گواه است همان گویی که لایق منز حال من را قرار میده شما به من چیزی ندهید قل ان ربی يقذف بالحق اللام الغيوب بگو همان رب من يقذف بالحق بوسیلی حق می زند بر فرق باطل يقذف بالحق یعنی چی؟ یعنی این قرآن حق هست خدا من بوسیلی باطل را نابود میکند کند اللام الغیوب ان رب من داننده همه غیب ها هست قل جا الحق و بگو بینهاد بی دلشون بنشیند مطمئن بشن حق آمده الان قرآن آمده دیگه شرک شمارا و تمام خرافات شمارا از ریشه بر می کند قل جا الحق وما یبدئ الباطل یعنی باطل دیگه بر نمی گردد و باطل چیزی ایجاد هم نمی کنه و ما یبدع الباطل یعنی باطل ابدا نمی کنه ایجاد نمی باطل هیچ چیزی نمیتونه درست بکنه و ما یعید باطل هم از بین میره دوباره بر هم نمی بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکہ را فت کرده مکه و مدینه مرکز حق و مرکز توحید شد تابع امروز مرکز حق است باطل دیگه بر نمی گرده قل إن ضللتو فإنما أضل على نفسي أي مردم بإنها إعلامكم أي مردم اگر من قمراه بشم كي شما منا متأم ميكونين الزررش براليه خودم هست بخودم زرر مرسه ولی اگر برهدایت باشم وإن اهتديتو فبما يوحي إلي ربي بسبب الرهنمائيها ووحي رب من هست إنه سميع قريب اون رب هم شنواست و هم از همه ما قریب و نزدیک هست لذا اینها تمام طریق تبلیغ هست که خدای عزوجل به پیغمبرش گفت به این شکل مردم را تفهیم کن مردم را بفهمان و در پایان الله عزوجل تخویف بیان می فرماید اگر شما قبول نکردید اگر شما قبول نکردید اون وقت برای شما عذاب هست اگر ببینی ای نبی من زمانی که اینا وحشت زده هستند زمانی که اینها در قیامت چی هستند وحشت زده هستند فلا فوتا یعنی از دست ما در نمیرند فوت نمیشند به این معنی که مخفی نمیشند همه اونجا گرفتارند و اخیزو من مکان قریب و از مکان قریب گرفتار میشن دستگیر میشن ببینید از مکان قریب یعنی اونجا هیچ چیزی برای خدا بعید نیست هر جا باشه خدا جمعشون میکنه مجرمین را یک جا وقالوا آمنا به اونجا وقتی که در گرفتار بشم میگه ما ایمان آوردیم ایمان میارند همه اینها ایمان میارند اما خدا من میفرماید و انا لهم التناوش من مکان بعید تناوش به تناول حاصل کردن ایمان به دست آوردن ایمان یعنی به چه درد می‌خوره حاصل کردن ایمان از جای دور الان دیگه دور اون جایی که ایمان باید شما حاصل می‌کردید اون از این جا فاصله داره محل دریافت ایمان کجاست دنیا الان شما به آخرت آمدید اونجا دور شدی از اونجا اون جایی که باید ایمان می‌آوردید دنیا بود لذا ان لهم التناوش چگونه خواهد بود برای اونها حاصل کردن ایمان من مکان بعید از جای دور الان تو آخرت هستید اونجا که در دنیا بودید ایمان نداشتید و قد کفروا به من قبل اللہ می در دنیا اون جایی که جای ایمان بود و قد کفروا بهی من قبل نسبت به ایمان نسبت به توحید نسبت به قرآن کف کردند من قبل یعنی قبل این در دنیا و یقذفون بالغیب من مکان بعید و یقذفون بالغیب یعنی از روی تخمین ندیده یک چیزی می انداختند منظور اینه که ایمان را که رد کردند توحید را رد کردند اسلام را رد کردند به صورت تخمینی و از کنم چشم بسته یک چیزی انداختند یخزفون بلغی به این معنی است من مکان بعید یعنی بدون تحقیق بدون تحقیق گفتن نه ما این دین را قبول نمی کنیم اصلا مطالعش هم نکردن بسیاری انسان ها امروز هستند در دنیا که از اسلام خبر ندارند، نمی کنند همین به خود زحمت نمیدن ببینند که اصلا قرآن چی میگه. و خیلی اوقات میشه که یکی از دشمنان اسلام و قرآن بر علیه قرآن میبینه یک اقدامی میکنه یا قرآن سوزی میکنه یا به قرآن توهین میکنه. بعضی ها به فکر میوفتن که اخی این قرآن چی میگه که مرد، مردم با این قرآن اینقدر مشکل دارند. بعضی میکنن قرآن را میرن تأیید میکنن مسلمان میشند. بس اصلش اینه که اینها بدون تحقیق در دنیا رد کردن خدا مشرکین را میگه اونها دعوت داده شدن ولی و یقذفون بالغیب من مکان بعید یعنی به بصورت غیبانه چشم بسته از مکان دور بدون تحقیق انداختن رد کردن قرآن را الان الان میگن که خب ما بر می‌گردیم ایمان میاریم الله میفر الان دور دیر شده وحیل هم و بین ما یشتهون حائل ایجاد میشه مانع ایجاد میشه بین اینها و بین اون چیزی که دوست دارن اونجا در در آخرت کافر چه اشتها داره چه چی چیزی را دوست داره اتوبه و ایمان تنها چیزی که دلش میخواد اون اون دو رو داشته باشه توبه و ایمان است دلش میخواد که برگرده توبه بکنه تنها آرزو و تمنایش نه تنها کافر هر مسلمان چون ما مسلمانان کوتاهی داریم ما الحمدللہ ایمان داریم ولی وقتی که به جهان آخرت میریم رسول اللہ فرمود در حدیثی تنها آرزوی ما این خواهد بود که ما برگردیم به دنیا و یک فرصتی دیگه به ما داده بشه ما دو رکعت نماز بخانیم و دوباره بریم به بی اندازه بیاندازه دو رکعت رسول الله فرمود این فرصت در باره یک قبری فرمود به صحابه گفت می دونید که بزرگترین آرزوی صاحب این قبر چیه؟ گفت الله و رسولش عالم تر است گفت که بزرگترین آرزو و تمناش اینه که یه فرصتی دیگه خدا بهش بده بیاد تو دنیا به اندازه دورکت همین دورکت را بخوااند و بره. فرمود این فرصت بهش داده بشه از دنیا و اونچه که در دنیاست برای صاحب این قبر ارزش این فرصت بیشتره. یعنی اگر به اندازه تمام دنیا پول داشته باشه آماده بده. فقط این فرصت را دوباره بهش میدن چرا چون انسان همین اندازه فرصت داشته باشه میتونه سرنوشت خودش را عوض کنه میتونه با یک توبه صادقانه و خالصانه زندگی خودش را تغییر بده لذا معنیش اینه معنی این حدیث و این آیه که ما که هنوز زنده هستیم و این فرصت طلایی به دست این عمر و این زندگی بعضی میگن زندگی ارزش نداره دنیا ارزش نداره زندگی ارزش داره زندگی اینقدر ارزش داره که از هر چیزی ارزشش بالاتره. چرا؟ چون انسان میتونه به وقت به وسیله زندگی آخرت را برای همیشه درست کنه. پس این فرصتی که ما در اختیار داریم این فرصت را از دست ندیم. این فرصت را غنیمت بشماریم. برای این فرصت و برای این وقت تلائی هم کافر حسرت می خوره هم مسلمان کافر حسرت می خوره که ایمان نیاورد مسلمان حسرت می خوره که بیشتر عمل نکرد لذا الله می فرماید وحیل بینهم و بین ما یشتهون حائل و مانع ایجاد می شه بین این کفار و بین اون که دوست دارند چی دوست دارند دوس دارن؟ توبه و ایمان را حال ایجاد میشه کما فعلا به اشیاعیهم من قبل همان گونه که انجام شد برخورد شد بی اشیاعیهم به هم کیشان و هم مذهبانشان قبل از این هم مذهبان اونها و هم کیشان اونها هم فکران اونها هم میخواستن یک باری تو دنیا بیاند خدا به بی اونها فرصت نداد بین هم فرصت نمیده این هم کانو فی شک مریب اینا تو دنیا فرصت را داشتند اما در دنیا در شک بودند سرگردان مریب یعنی سرگردان سرگردان بودند در باره توحید در باره خدا در باره آخرت در باره محمد صلی الله علیہ وسلم در باره قبر در باره همی چیز شک داشتند بهشون گفته شد که ایمان بلغیب بیارید اخی این ایمان چه ضرری داره ایمان نیاوردند لذا ایمان که نیاورده الان میخواند دوباره برگردن تلافی بکنند ولی وقت تلافی دیگه نیست یک بار که خدا به آخرت ببره دوباره فرصت به انسان نمیده الله عزوجل به همه من و شما توفیق بده که ما از عمرمون ز... از, عمر از زندگیمون از این فرصت تلاعی و ارزشمندی که خدا عزوجل به ما داده حد اکثر استفاده را بکنیم الحمدلله الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ما أصبح بي من نعمة او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فلك الحمد ولك الشكر فلك الحمد ولك الشكر اللهم لا نحسي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونور قلوبنا وقرة أعيننا وجلاء أحزاننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وتلاوة القرآن وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ترفت عين استغفرو اللهم و نتوبو الیک استغفرو اللهم و نتوبو الیک استغفرو اللهم و نتوبو الیک پروردگارا یا رب نمیدانی باچ زبانی شکر بگویم بر این نعمت بر این نعمت قرآن که به ان فرمودی فرمو دی پروردگار این نعمت را بیشتر بگردان فهم ما را در قرآن بیشتر بگردان بی بیشتر به بی ما تفہیم بفرما کلامت را بیشتر به بی ما یاد بده که ما یاد نداریم ما محتاج هستیم اروردگار این درس را که با این به این صورت که فکر نمی کردیم این سال با به شرایط جسمی خودمون بتونیم این درس را به پایان برسانیم اروردگار ما را کمک کردیم امی دونیم چگونه تشکر بکنیم مولا ما شکر گزاریم و این نعمت را تا روزی که زنده هستیم از ما نگیر ما را را به عنوان خادم کوچکی برای کلامت قبول بفرما خادم کلام الله بگردام و این قرآن را روز قیامت برای ما باعث شفاعت بگردام پروردگار بخاطر غفلت و کوتاهی کی با واسط شکایت ما نہ باشه پروردگار رب ہموں طور کہ فرمودین قرآن نور هست زندگی مارا نورانی بگردان قلب ہمارا پر نور بگردان زندگی و حیات مارا پر نور بگردان و قبر و حشر ما را ہم پر نور بگردان به وسیلہ این قرآن پروردگار یا رب بما توفیق بده کہ ہموارے حق این کتاب عظیم را ما ادا بکنی پروردگار ا رب بر ما لطف بفرما بر ما رحم بفرما و اله العالمین فروردگار ما را از همه آفات و مصیبت حفاظت بفرما از آفات و مصیبت های دنیا و آخرت حفاظت بفرما از فتنها حفاظت بفرما از شرک حفاظت بفرما از سوء عقیده حفاظت بفرما از سوء عمل حفاظت بفرما از سوء اخلاق حفاظت بفرما دنیا و آخرت ما را آباد بگردان دین و دنیا ما را اصلاح بگردان رو هدگار یا رب تک تک این عزیزان را این طلاب را که درس خوندن، و کلام الله را اینجا در این دوره شرکت کردند تاکتکیشون را عالم قرآن، عامل به قرآن، قرآن، ناشر قرآن و خادم قرآن بگردا. وردیگارا یا ربّا این درس رب را برای همه ایماصدقیه جاری بگردان بر واردگار روزی که دنیا تا روزی که دنیا هست این سلسله ادامه داشته باشد بندگان, بندگان دیگری تو بیانند و این سلسله درس را سلسله معارف و مفاهیم قرآن را به بندگان برسانند عقایدشون را اعمالشون را اخلاقشون را اصلاح و تزکیه گرتند وردگار رب یا اللہ ما نمیدانیم دانیم چند از تو بخواییم اونچه که خیر دنیا و آخرت ماست به ما انایت بفرما و اونچه که شر حس ما را حفاظت بفرما دعا را در حق ما و در حق تمام محسنان ما قبول بفرما بالخصوص انهایی که ما این چند کلمه درس را از محضر اونها استفاده کردیم اساتید بزرگوار ما حضرت علامہ شیخ تفسیر مولانا عبد الغنی جاجروہی شیخ تفسیر مولانا محمد حسین علوی مولانا شیخ القرآن مولانا غلام الله خان مولانا حسین علی اور دیگر همه این استادان را همه این مرشدان را که در قابل خوفتند، همه را روحشان رشاد بگردان، و از این درس های ما بهترین روح و ریحان را به اونها برسان، بروردگار از طرف ما بهترین جزای نیک را به این بندگان مخلص عنایت بفرما، و اله العالمین استاد و مرشد همه ما، بانی این خیر در این شهر حضرت علامه مولانا عبدالعزیز، روش را شاد بفرما درجاتش اشترا در بهشت در جنات فردوس بلند بفرما درجات ایشون و فرزند بروبندشون مولانا عبد را و تمام اهل بیت مولانا همسر مولانا و دختران مولانا کتا حالا رفتند همه را فروردگارا جایشون را در جنات فردوس قرار بده وفرزندانی مولانا را مولانا نوهای مولانا را حمیره حفاظت بفرما بفرما در مسیر قرآن و سنت و در مسیر خدمت خلق قرار بده در مسیر دین و تقوا قرار بده در مسیر خدا ترسی قرار بده بروردگار الشیخ ومرشد من عزیز شیخ الاسلام را حفاظت بفرما بر عزتش بیارفر بر توفیقاتش بیارفر بر خدماتش بیارفر اولادش را و فرزندانش را پروردگارا فر رشد و ترقی انایت بفرما و تک تکشون را خادم دین بگردان مخلص اسلام و قرآن بگردان پروردگارا فر فرزندان همه مارا هدایت بفرما فرزندان همه مراتین دیندار بفرما اون فرزندانی که آلوده هستم با دود و با گناه و با معصیت بفاضت شون بفرما پاک شون نجاتشون بده پروردگار باقیه اساتید اسادتی که دیر یازود رفتم بالخصوص اساتیدی که امسال دارالعلوم از دست داده و جای خالی شون را احساس میکنیم و در برنامه درسی نمیدونیم کتاب‌های را به کی ارواحشن را شاعت بفرما وجہشن را پر بفرما مولانا عبد الرحمن محبی مولانا خدا رحم رودینی مولانا خدا رحم برا ہوئی مولانا ادہم سپاہی و اساتیدی که قبل اینها بودن، مولانا محمد اسماعیل زعی مولانا نعمت اللہ که چندین سال انجا درس قرآن می دادند مولانا عبدالحکیم حسن آبادی مولانا احمد که چندین سال برای مردم خدمت کردند مفتی خدا نزار، مولانا یار محمد مولانا ابراهیم دامنی همه این اساتید، همه این بزرگان را غریق رحمت بفرما، ارواحشون رشاد بفرما، مقتدیانی که در این مسجد اینجا عبادت کردن، ولان جایشون خالی هست، دروردگارا فرزندانشون را توفیق بده جایشون را پر بکنم، او مقتدیان را غریق رحمت بفرما جوانانی که در گذشته بودن خوهران و مادرانی که در گذشته بودن و امسال نیستن در همین حلقه های درس ما بسیاری شرکت می کردن هم از خوهران و برادران نیستن دروردگارا ارواحشان را شاد بفرما جایشان را در بهشت برین بفرما یا رب همه یه محرم مورد مغفرت قرار بده اونهایی که رفتند و اونایی که زنده هستیمقط مح ما رو با ایمان بگردان آخرت ما رو آباد بگردان مشکلات همه ما مشکلات عزیزان که هر نمازی ما مسجد میریم و نماز میخوایم بکنیم ده نفر میگه مشکل داریم وردار این بندگانه تو اعتقاد دارن که تو فقط مشکل کشی و اعتقاد چون هم حقه اینا ایمان دارن که تو مشکلات شون راہل میکنی و حسن زن و باور اینه که این دعاها قبول میشه پروردگار این دعای ما ترقی انها و ما قبول بفرما و مشکلات हमे را حل بفرما پروردگار پریشانی های हमे را دور بفرما مریضان हमे را شفا بده हमे بی اولادان را اولاد بده हमे زندانیان را آزادی بده हमे ورشکستگان احوال شون را درست بفرما پروردگارا یا رب دنیا و آخرت مارا آباد بگردان تا روزی که زنده هستیم توفیق عطا تو بندگی بده ما را از خجی از گمراهی از انحراف پروردگارا حفاظت بفرما بر مسیر حق بر مسیر ایمان بر مسیر صحیح و درست گامزن بفرما ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمةك يا الرحمن الرحيم درود بخن